اللهم صلی اللهم محمد و محمد عوض بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامون علیکم ارزده احترام خدمت شما جواب سلام واجب با سلام واجب بتونیم یا مثل نمازه برای خودتون میگم و اینه برای من خیلی فرق نمی بعد تسلی درس میکنم این بدون بزنو فوتبق در آیزم رو شروع میکنم ببینید اون چه که انسان رو متفاوت کرده این یک واقعیته بخش قابل توجهی قابلیت های زیستی انسانه اینو نباید فراموش بکنیم یعنی چی؟ یعنی این, این اگر این روح در این انسان دمیده شده بسیار بسیار بسیار, بسیار، تا فرد شب بسیار به مغز انسان مرتبط وابسته. است یعنی اگر مغز انسان مغز بود مثل این داونی ها از نظر اندازه به حجم کوچکتر از مغز انسانهای عادیه اما اون کاهش وزن و حجم مغز در بخش‌های مهمه در حافظه است، در یادگیریه، در تحلیل. یا ها که بین 300 هزار سال تا چل هزار سال پیش زندگی می‌کردن، بر روی زمین اینها مغزشون 100 گرم از انسان امروزی بزرگتر بوده. اما اون بخشی که بزرگ بوده مربوط به یادگیری‌های بخش حرکتی مغز بوده مثلا مربوط به بخش بینایی بوده که برای یک بشری که انسان نخوسی میخوایم اسمش بذاریم ناندو تول مثلا ما قبل انسان نخوسی میخواد اسمشو رو بگذارید اون نیاز داشته اون نیاز داشته به این بخش مغزش بزرگتر باشه اما بخشی که مربوط به بخش قدامی مغز بوده که در ما بسیار مهمتر خوب کار میکنه بزرگتره اون بخشش باز کوچیکتر بوده میخوام بگم یک رابطه اینطور است امروز سوالی که پیش میادینه که آیا شما اگر یه نفری که دو چهار سن یه قتل انجام بده شما اعدامش می‌کنید؟ تمام شما چطور رو ساختار و نظامات تکلیف و حقوقی وارد شدید؟ دقیقا متناسب با قدرت اختیار و مغز اون فرد. چطور ما میتونیم راجع به انسان صحبت بکنیم؟ راجع اشرف مخلوقات صحبت بکنیم؟ و مغز او رو لحاظ نکنیم. این خیلی به نظر نکشه مهمه و مخفوله. متاسفانه تو بخش دوستان که تو در واقع دینی همین رو بررسی میکنن خب خیلی بهش نمیپردازن یعنی تمام تمرکز روی خود روحه. ما وقتی به نفس انسان بچه ها داریم صحبت میکنیم این نفس از خود همون روح تا این مغز همه اینها یک پارچست این نفس انسانه. شما نمیتونید مجزا مجزاش کنی بخش بخشش میکنیم. پس اقل سالم در، بدن سالم این مغز پس ما اول باید درکی از خود هوش پدیده و مغوله هوش داشته باشم که حالا چه طبیعی چه مصنوعی اگر ما امروز متوجه نشیم که این مغز چطور کار میکنه نظاماتش چطور ما چه جو می‌خوام راجع به هوش مست می‌صحبت بکنیم همین مغز طبیعی داره هوش مصنوعی رو ترویج میکنه همین برنامه‌نویسان همین متخصصین در بسیاری از موارد ما داریم از همین مغز طبیعی کپی می‌زنیم پروتکل هایی که داریم میذاریم الگوریتم هایی که داریم میذاریم از همینه وقتی ما اینو درست نشناسیم چطور می این رو درک دقیق بعد ازش داشته باشیم یه مثال براتون بزنم ببینید مغز ما با نظامات پاداش ها میفهمه کجا بیشتر نورون کنه کجا رد عصبی درست بکنه کجا نکنه شما وقتی تهدید میشید وقتی بقایتون به خطر میفته مغز به تکاپو میفته برای حفظ بقا با نظامات و هرمونی هومون پاداشی که می میفهمیم که این رفتار وزن بیشتری داره. شما تو اوش مصنوعی این رو چطور تعریف می کنید؟ میا... اون که اون... اون که هرمون نداره که. درکی از مسئله خب و بغز نداره از خشم درکی نداره. شما باید اینا یه شبیه سازی کنید. با چی شبیه سازی کنید؟ شما باید احساسات رو به اینجا بهش وزن بدید. بگی این ده این نه این هشته، این هفت اونم باز کی داره این پورتکولار می نمیسه؟ بازم تو بازم شما دارید این رو می نویسید فرض بکنیم سوال کلیدی بنده این است فرض بکنیم تونستیم کپی همین رو بسازیم همین که خودمون داریم اون نظامات پاداش هاش هم درست کردیم وزن بهش دادیم بخش از اینا هنوز حرفای جدیدی که میگن آقا تو دهه های آینده سال های آینده قرار بش برسه. خب در واقع الان ما ANI ای آی هستیم یعنی هنوز کوچیکه این مق... این مقوله قرار AG بشه جنرال بشه الان محدود اون قرار پابلیک بشه عمومی بشه اون موقع اتفاقات عجیبی افتاد اون مقاله دیپ لرنینگ به معنی واقعی کلمه شکل میگیره حتی اون پروتکل ها رو خودش کشف میکنه که بر چه مبنای یه چیزی باید خوشش بده چیز بدش بده ببینید برادران خواهران عزیز من آقایان خانم‌های محترم ما یک بخشی در مغز داریم تحت عنوان رپتالیان برین، مغز خزنده این تمرکزش روی بقا، حفظ بقاه بعد آمیگدالو داریم که حیجانات، احساسات چه و بعد بخش کورتکس بخش مغز انسانی و خیلی مهمه 92 درصد تصمیمات انسان ها متأثر از دو بخش اوله یعنی تصمیمات به شدت حیوانیست بقا بسیار مهمه همان چیزی که ما تو اخلاق اسلامی و عرفان اسلامیش میگیم نفس بر خلاف نفست شما یه کاری میکنید یعنی چی بچه کوچیک اصلا اون بخش کرتکسش هنو خیلی رد در سبی نساخته بر همین آب روحیستشونو میبره توی مهمونی میرید شکولات برمیداره کنترل ادرار نداره این حیوان برخورد میکنه قضا ببینه میره سمتش برمیداره حتی شما حیوان هم وقتی میخواد این کار نکنه شرطیش میکنه با بقاش یعنی چی میگی سمت این قضا انجیلی بری کتک خوردی بازم بقاش رو به خطر میذاری که اون کار انجام نمیده اینجا شما چطور برای یک هوش مصنوعی میخواید نظامات رو تعریف کنید فرض بگیریم این کار کرد میخوام بگم همین انسانی که الان اشرف مخلوقات 92 درصد تصمیماتش تصمیتش متأثر از دو بخش حیوانیه مغز انسانه اومدیم اینو ساختیم خب شما با یه موجودی مواجهید خب بغز نداره دلیلی نداره اگه چیز خوشش بیاد همشهری بازی نمیفهمه یا نه میخوای دستکاری کنی تو براش وزن قرار بده خب این تو در خلقت او تأثیر گذاشتی آمدیم فرض دیگه اینو کپی زدیم آیا در این روح دمیده خواهد شد یا نه؟ سال دینه. اینه اگه رجوع آخر زمان دارید حرف می زیدید من اینه در این روح عین این کارو کپی کرده شما الان میگید یک سندروم روح دارد یا ندارد؟ جواب میدید؟ بدید خب او داشته نداشته باشه؟ دقیقاً علت برتری او رو چی میبینید؟ که او داشته باشد نداشته باشد. و اگر روح دارد احکامش چی میشه؟ شما اجازه دارید دیتابیس اینو پاک کنید اجازه دارید بکشیدش اجازه دارید دستکاری کنید پروتوکل هاشو اگر راجع به آخر و زمان دارید حرف میزنید اون موقعی که این AGI فعال و بعد از اون اصلا الان میگن ده ها بعدا ASI قرار فعال بشه اون موقع با موجودی مواجهید که حب و بغز ندارد، دسترسی بسیار بالا دارد، فراموشی ندارد من شما اسم طرف چی بود یادمون رفت؟ آخه این ببخشید اشتباه کردم یه لحظه فراموش کردم دسترسی بسیار بالا دارد شما چند تا استادید؟ پنج تا و انواع اقسام سنسورها رو میتونه داشته باشه چ شما شب نمیدون که دوی در شب داشته باشه مغز من شما ارتفااقنج به اون معنی نداره اینا ارتفاصلن جمع دارن صورت بادم محاسبه میتونه بکنه سرما و گرما رو محاسبه کنه ده ها حس و سنسور داشته باشه بتونه آنالیز بکنه و شما بتونه کتب خطی رو بخونه بتونونه PDF رو به ورد تبدیل کنه تمام کتب خطی رو بخونه. بدون حب و بغز یک مناظره ای که دو هزار سال پیش بین یک مسیحیه مثلا چه میدارم؟ فلان فرقه با به همان فرقه شکل گرفتر رو بررسی کنه ببینید کی ارجاع درستری داده. منبع شناسی کنه همین کارو بکنه بعد به یک باره به تمام گوشی های موبایل های شما یک پیامی بیاید. مخواید اسمش رو بذاری متناسب با زبان شما رو گوشه موبایلتون بیاد بگه آقا حق با فلانی بود. درست شد؟ آقا چیکار تا الان سیهر رو یه پدیده معجزوار می دیدید؟ من اون رد نمی کنم نمی تونم هم رد کنم منطقاً اما میگم خیلی اون طرف هم الزامی نداره بگردید همینجه گوشه موبایلتون نواه کنید شاید چون این تصمیمیست چون میگه تا شب بدلش می زنن بدلشو می زنن چه دسترسی را رو ازش می گیرن؟ یه پیام فیک میفرستن این همون که می شونیمش می, می گه سیه اتفاق سمانی من از ابتدای خلقت مجبور شدم تا انتها رو خ... بگم حالا بخش رو میام باز می‌کنم ببخشید. این سوالو از آیه از غریب و زایوان می‌پرسم. آیه از غین شما درباره چیستی و مایت هوش مصنوعی چیه؟ یه توضیه در 8 دقیقه معلوم میشم این من رایت کن که به همه موضوعات برسیم. من اولی پاسخ بدم با سوال آیه بس عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما عزیزان هستم و امیدوارم که جناب وستاد رافیپور جسارت حقیر رو ببخشن به بزرگی خودشون که ایشون استاد ما هستن و بنده درس پس میدم جدا بدون تعروف و دیگه حالا ارائه شاگرد خودشون رو انشالله بزرگوارید ببینید ما وقتی راجع به هوش مصنوعی صحبت میکنیم اول باید با این ادبیاتش کامل آشنا بشیم اول بفهمیم که این واژه از کجا آمده و اصلا موضوع چیه عنوان این نشست همونطور که از اسمش مشخصه خودرایان در اصر آخر و زمان اصلا خودرایان یعنی چیم اولین رو تعریف کنم خودرایان از کلمه رایان یا همون رایانه گرفته میشه رایان توی فارسی به معنای پردازش یا اندیشمند یا دانشمند هست رایانه اصطلاحا ما به چیزی میگیم که کار پردازش انجام میده. خود رایان چیزی که خود به خود پردازش میکنه و هم آموزش میبینه و هم آموزش میده کارش پردازشه دیگه. لذا این عنوان خود رایان از اینجا آمده نکته بعد خب میدونید خالق هوش مصنوعی شخصی به نام آلن تورینگ و 1950 یک آزمایش انجام داد معروف شدین آزمایشش به نام آزمایش تورینگ یا ماشین تورینگ که یک شخصیتی رو رو عنوان بازرس فرض کرد در نظر گرفت و دو نفر رو هم به عنوان خلاصه متهم یکی خانم یکی آقا اینا رو توی یک اتاق دربسته فرض کرد و این باز پرس این بازرس باید یک سوالاتی را از اینا میپرسید و در خلال این پرسش و پاسخ تشخیص میداد میفهمید که حالا اینا کدومشون زن مرده. حالا اونا هم باید به یک شیوهی پاسخ رو میدادن مثلا یا از طریق دستگاه پرینتر صداشون نرسه یا از طریق یک واسط این ماشین تورینگ در واقع یک آزمایش جالبیه اگر فرصت کردید حتما راجع یه مطالعه مختصری بکنید در واقع ایده ای اولیه هوش ای مصنوعی از اینجا شکل گرفت جلو وضعیتی که ما الان درش هستیم من خیلی کوتاه بخوام یه اشاره بکنم و رد بشم ببینید ما یک زمانی از صفر و یک ریاضی و علم منطق هوش مصنوعی رو به وجود آوردیم اما امروز بحثی که داره میشه از هوش مصنوعی بحث خیلی بزرگتر از این حرفاست و جنریتیو ای آی یا هوش مصنوعی مولد هست که اینو عملا دیگه خیلی نمیشه کاریش کرد البته میشه کاریش کرد حالا من در ادامه ارائزم نکاتی رو عرض می‌کنم و اتفاقاً چرا خوب شد که جناب استاد رافی پور اشاره کردن به همین بحث هوش و کارکردهای مغزی و خود روح اصلا این روح چیه ما تو قرآن داریم که ویسالون که عن الروح قول الروح من امر ربی و ما اوتیتو من علمن لا قل توی قرآن خدا به رسولش میگه ببین میان راجب روح اسما میپرسن سوره کهف هم هست شما بهشون بگو خیلی راجب روح چیزی نمیدونید مگر حالا اون چیز کمی که من به شما بخوام آموزش بدم آیا هوش مصنوعی امروزه میتونه صاحب روح بشه یا نه روحی که منو شما داریم و من این اجازه بدید به عنوان تیزر الان گفتم بعد انشاءالله در ادامه عرایزم بهش اشاره میکنم بینید عزیزان جدایی از بحث هوش مصنوعی یک برنامه هست توی دنیا داره اتفاق میافته تحت عنوان کلونینگ یا شبیه سازی این شبیه سازی من معتقدم به زودی ارتباط خیلی نزدیک و عمیق و یک پیوند بسیار مستحکمی برقرار میکنه با هوش مصنوعی چرا؟ چون عموماً علومی که امروزه هستن علوم میانرشتهی دارن تبدیل میشن و گره میخورن من ریاضی داره به تب گره میخوره یه چیز جالب بهتون میگم کتاب سلولای بهاری آی پروسور بهاروند کتاب خیلی پرفروشیم از جایزه یه فکر کنم جلال احمد هم گرفت. کتاب حتما بخونید. متوجه میشید بخشایی زیادی از این کتاب کتاب پیرامون سلول های بنیادیه که چطور مثلا از یک سلول کوچیک میشه آدم ساخت. میشه عضو ساخت. میشه عزوله ساخت. کاری که امروز دارن انجام میدن. ما این مادر اون مشکل زانو پیدا کرد از ضات این در قزروفای های روی زانوش خورده شده برثر استکاک زیاد روی همدیگه این ضروف ها ساییده شده و خورده شده بود این ورون بر دکتر نتونستن کاری بکنم من یه جلسه رفته بودم پگاه روگان حالا اونجا دوستی داشتیم یه تماس گرفتم گفتم که آقا شما درمانه اینو داری داریگو آ کاری نداری که مثلا یه دونه جنا از سلول های بدنش رو میگیریم تبدیل میکن تو یک چرخه فرایند میذایمش تبدیل میشه به همون قزروف بعد همونو رو میزنیم بشه یعنی شما الان مثلا فرض کن یک عضوی رو میدونم بر اساس نقصی بر اساس حالا هرچی از دست بدیم توی پژوهشگاه رویان و حالا علم سلولای بنیادی این قابلیت هست که دوباره عین همون رو باسازی بکنم و پیوند بزنم حالا من خواستم چی بگم توی این کتاب های پروفسور بهاروند اشاره میکنم می‌گه ببین سابق علم پزشکی داشتیم جدا علم نجوم داشتیم جدا تب داشتیم نمیدونم، فیزیک داشتیم معماری داشتیم مهندس همه اینا رو داشتیم هر کدوم جدا جدا میگه الان کاری که ما داریم خودمون مثلا توی پژوهشگاه رویان انجام میدیم یا توی برخی از دانشگاه به صورت پایلوت اینتر داره اجرا میشه چیه اینا رو ما به صورت میان رشته‌ای به صورت مرکب واهم داریم میخونیم مثلا اگر داریم راجع به تب مثلا تحقیق میکنیم صحبت میکنیم جدا از این که پزشکی توی این تیم هست یه شیمیدانم هست یه معمارم هست یه ریاضیدانم هست و بر همین اساس بنده معتقدم به زودی زود هوش مصنوعی گره می‌خوره با بسیاری از علوم دیگه که اصلا شاید حتا فکرش هم نکنید یکی از اون علوم قطعاً علم پزشکی خواهد بود نه تو بحث درمان تو بحث کلونینگ بحث شبیه سازی بحثیه که ببینید تا الان اتفاق افتاده مون تا به خاطر اون جنبه‌های اخلاقی و یا احیانا شیطانیش بعضی‌ها رفتن سمتش بعضی هم ابا کردن از اینکه برن توی ایران ما مدل اخلاقیش رو اجرا کردیم شد همون شنگول و منگول اون دوتا برهی که متولد شدن از هیچ پدر مادری نبودن و صرفاً با همون روش سلولای بنیادی اینا رو شبیه سازی دوتا حیوان شبیه سازی شد حالا یه سوال. شما فرض کنید که یک حیوانی رو شبیه سازی بکنن و توی مغزش یک علمی یک تکنولوژی به کار بره به واسطه هوش مصنوعی بیگ دیتا رو فعال بکنه تو مغز این نسبت به هر چیزی که شما از این سوال بپرسید به شما جواب میده راه حل همه چیز رو هم میدونه چه اتفاقی میافته؟ خیلی جالب میشه نه بعضی از ارتش های دنیا به این سمت رفتن مثلا ارتش چین ارتش آمریکا ارتش روسیه پروژه ها هم هست که اینا رفتن به سمت ساخت ابر سرباز حالا دارن دستکاری ژنتیکی میکنن، سعی میکنن مثلا هم ساختن، مثلا این چیزی نیست که بگی واه، یه تئوری شاهداری مطرح کرد نه، چیز طبیعیه میگم، اصلا بلاازه علمی ثابت شده است. امروزه هم دارن بعضی جا ازش سوء استفاده میکنن. مثلا فرض کن شما فرد و روز با یک انسانی طرف هستی که این شاید شمایل انسان داشته باشه، ولی رفتارش یه رفتار دیگه است. به واسطه کلونینگ میشه انسانهایی که ولو هزار سال پیش بودن رو امروز شبیه سازی کرد میشه این حرف خودم نیست حرف اساتید این حوزه است اساتید دانشگاه بقیه اساتید بیمارستان بقیه تهران خوب اینا چی میگن مثلا تو بحث سلول شناسی میگن آقا شما همون شخصیت شهید متحری و علامه تبا طب رو چه میدونم دکتر مصدق رو شخصیت های تاریخی و اصلا رزاخان رو همین الان از تو گور میشه در یه سلولشون رو گرفت بازسازی کرد عین همون شخصیت رو دوباره ساخت اخلاقی این کار میشه این کار کرد به لحاظ علمی شدنیه منتا اینش این خودش خودش همین شخصیت رو اینن ساخت آقا شما فرض کنید یه شخصیتی روبروی شما نشسته خود رضاخانه، همون قیافه همون سیبیل همون قد همون شکل و شمایل منتهی به لحاظ رفتاری دیگه اون نیست چون روحش فرق میکنه اینجا قصه فر میکنه اینجا یه اتفاقی میافته که داستان متفاوته شکل همونه ها شکل همونه قیافه همونه جسم همونه بدن همونه منتهی رفتار فرق میکنه اینجا رو حالا بعدا من جلوتر تو بحثه اینکه چه اتفاقی میفته و داستان رو ان اشاره کنم وقت تمام شدن یا من جوابتون میدم شما یعنی بچه یه دنیا حرفه من موندم مثلا چجوری باید اصلا توی جلسه یه سر فصله تو ذهنتون. باز میکنم بعضیشون جواب میدم بعضیش هم بعدن حوالی سخنرانی های بعدی خب این سلسله مباحثیه اول باید ساحت روح کامل مشخص بشه مغز باید مشخص بشه نفس باید مشخص بشه اگر اینا درست اگر بحث نکنی بحث فلسفیشو مشکل بخونی من با چند تا سال چالشی این سال که از آی از غری عزیز پرسید من خودم با سوال سآلتون رو پرورش بودم ببینید شما فرض کنید یه دوغلوی همسان داریم همسان یعنی چی؟ های کپی نه خود خودش یه دونه این تو تکثیر شده یک دونه این طرف خب آیا دوغلوها فقط توی یه چیز با هم فرق دارن. چه؟ اثر انگشت این دو قلوها وقتی بزرگ میشن رفتارهای شبیه به هم زیاد دارن. تحقیقی انجام شد در اروپا دو قلوهای همسانی که پدر پدرمادرشون از هم جدا شده بودن. در کودکی. یه دونر به این داده بودن یه دونه رو به اون یکی. بعد از 17-18 سال و این از هم کات بودن. با هم ارتباط نداشتن. یعنی اون جامعه آماری که رفتن سراغش سخت بوده محدود بوده اما پیدا کردن من زحمت میکشن که امروز دارن نتیج زحمتشون میشن الالم سلطان شما اگر علم داشته باشی باهاش نفوذ و برتری و سلطه و اینها میاد خب وقتی رفتن سراغشون خیلی عجیب بود انتخابهایی که در زندگی کرده بودن بسیار به هم شبیه بود حتی همسرانی که انتخاب کرده بودن شبیه بود نشون میده بسیاری از انتخاب‌های ما در جبری از ژنتیک روخ میده اینا اینیت داشته باشید بسیار به هم شبیه بوده درست اینها تولیدی کارخونن کپیان. اما انقد این پدر مادره با هم دعوا داشتن اختلاف نظر داشتن که دو تا, دو تا فضای مختلف بزرگ شدن فضای اکتصاب متفاوت بود. پس وقتی ایشون داره میفرمان که شما با کلونینگ میتونی یه آدمو اینن همون بسازی میگم خیلی نمیخواد چیز عجیبی اینا تو دوقلوای همسان داره اتفاق میفته <تصفيق> همینن داری خود خدا این کاری کرده وقتی میگن کلونینگ انجام میدید یه نفر رو از روی سلولش مثل کپی بسازی کار پیچھے همین الان داداشش دوقلوش همونه خود همونه اما شما میگن خلقیات تفاوت میکنه بعضن کم دوقلوها هم خیلی شبیه منو تحقیقات علمیش رو صورت گرفتین حرفی دارم میذارم به, به هم به هم اما میگه این یه آدم دیگه است این یه آدم دیگه درست شد اینجا اون بحث روح مطرح میشه من از این سری میگذرم اینو جواب منو دید حضرت عیسی یه تیکه گلو برمی داره شبیه خفاشش میکنه یه پرنده میگم خفاشو بعد در اون میدمه قران میفرماد به اذن نی به اذن من خدا این چی شد؟ پری حالا جا حضرت عیسیا شما جا این گله ربات با این تفاوت که او یه پرنده‌ست اما این لرنینگ داره این دیپ لرنینگ داره عمیق میفهمه الان همین هوش همین چت جی به اندازه فکر می‌کنه پسر اون 16 ساله مثلا تحلیل میکنه خب من بس بشه همین الان مثلا بیا چالش بذار میخوام بکشمش مثلا شما ببینید که ببین این داره تحلیل میکنه این گوگل نمییره سرچ کنه درست دیتابیسی داره برای مثلا هوش مصنوعی چیه هوش مصنوعی داده است اصلش چی میگیری چهجوری با چه ساختار و سازمانی رو میاد تحلیل من قبل اینکه با چند جیبتی بخوام به چالش بکشم چند تا مسئله رو ببینید یه سال دیگه ازتون خدا انسان آفریده یه ورژن جدید از ورژنهای قبلی که زده بوده ناندرتال قبلا آفریده بلده میاد یه دونه جدید درست میکنه به چالش بکشمتون سوره نسا یک بلند بخون. باشه شما رو خلق کرد من نفسن از یه نفر از یه دونه یعنی نمونه اولی چی بوده یک دونه بوده بعد و خلق منها و خلق منها زوجها و از او زوجه شو درست کرد پس اول یک تونه بوده از این مؤنسشو درست کرد و بث درسته؟ من همه کنی مرد و زن آفرید از این دوتون ببین؟ فرض آقا فردا این کلیپو کات نما میترسم در دیوونه ما این کلیپو ما رو کات میکنه قصه درست نمیزنه به خدای جبر چیزی درست کردم تو حرف بزنه فرض آقا این پیش دنیای خیالیه ما اومدیم ما یه ما هر چی اسمونو میخواد بذارید واسطه های خلقتین به فرض مثل حضرت ایسا که قرآن تایید کرد خدا احسن الخالقینه یعنی خالق های دیگر وجود دارد میتواند باشد او بهترین است به ازن او صورت میگیرد. او اجازه نده رگ حیات همه رو می بره. این نفی خالق نیست. از قضا اثبات خالق دوستان. او آمده یکی از این نان برداشته جهش ژنتیکی داده. بخش فرونتال مغز بزرگتر کرده. تو شکل جمجمه تغییر داده. دی ای رو دستکاری کرده. رک فی ای صورتن. رکبک ترکیب کرده تو چی فی احسن تقویم در بهترین شکل آیا امکان ازدواج بین اینها و هوموساپینس ها بوده بله این یه ورژن ویجاست یه جفت خاصه درست شد اینا میتونن با اون ازدواج کنن بعد پس مسئله ازدواج های آدم حو هم چی شد حل شد این لرنینگ داره این بشر من و شما این یاد میگیره داره میگرده یوی میگه منو کیا فریده تفکر انتظاعی در بشر بوجود آمد یعنی چی؟ یعنی دیگه تو قار اگه نقاشی میکشید گاو فقط نمیکشید کله آدم رو میزه بدن گاف تفکر انتزاعی داره میتونه تخیل کنه یک بخش دیگه از مغز فعال شده که تو ناندرتال ها به این شکل نبوده این حالا یه موجود ویژه اینه گرفتید؟ حالا ما میخوایم این کارو کنیم من یه برنامه نویسم خوب گوش کنید اینجا با سفر و یک ما دولی هم چیه؟ برق با این ابزار یه محیط بازی خلق میکنم نکردن تا الان خیلی ساده اتفاوت با سفر محیط بازی خلق کردم تو این محیط بازی یه کاراکتر ساختم قوانینش کی نوشته؟ من نسوز ناسو تو آتیش رو آب راه برو نمیتونم ایف الس ایف نه؟ چوزینه؟ ایف الس مسره برنامه نویسی میکنم طولانی کنید عمرشو اینتر کم کنید عمرشو این خیلی پدر سوخته بازی درو دینو باید بکوشیمش از این دیوار تعریف میکنم نمیتونی رد چید. از این دیوار تعریف میکنم در مخفی داره میتونی رد چی بازی نمیکنید شما گ انجام نمیدید همین نیست حالا فکر کنید اون کاراکتر اون کاراکتر لرنینگ داشته باشه. هوش مصنوعی خودش شروع کنه فکر کنه یک سال اول من چطور میخوای به این بفهمونی گوشت و پوست و یعنی چی؟ اون سفر و یکه. چطور میخوای بفهمونی من خالق جنسم چی؟ چطور میخوای بهش بفهمونی تو توی کامپیوتری من بیرونم. بیرون یعنی کجا؟ من قبل تو بودم. قبل کل شيء. وقتی تو هستین، این لا شيء. بعد کل كل همه اینا هستم اراده کنم کن، فیکون. ترک میشه رفتارهاین یا نه؟ هر جا میره انجام، ترک میشه رفتارش نه؟ تمام ثبت میشه. میتونه بپیچونه یه چیزی رو؟ مطلقا. برای این حالا قوانین میذارم. یه روز بلند میشم میام کامپیوتر روشن میکنم، نگاه میکنم این داشته لرن انجام میداد با این رفیق شده به اون چیزی که به مرحله رسیده نکته انتهای ارزم اتقاط کنید به مرحله رسیده برای من کامنت گذاشته برای من خالقش میگه تو کی هستی منو خلق کردی یکی باید منو خلق کرده باشه تو کی من دومال تو می‌گردم. یه مثال از بالا به پایین سمت اون زدم یه مثال از اینجا به بعد دارم می‌زنم. حالا من برنامه نویس خالق اینم یا خدا هر جفتمون ایسا خالق اون پرنده است یا خدا جفتشون خالق اصلی بالایی است به اذن اوست به اذن اوست من نفس میکشم و برنامه نویسی میکنم خب همه ی حرف امروز اینه چالش اصلینه آیا آن پرنده روح دارد؟ بله آ یا این مخلوق من تو این بازی کامپیوتری چون ما خیلی جرمی و جنسی و جسمی فقط ربات و چیز میفهمیم دیگه سخت افزار میفهمیم این نرم افزار روح دارد یا نه این دعوای اصلی امروزه همه همینو میگن من نظر خودمو دارم ما. خب اما این محل بحث امروز کلی تو دنیا دارن فلوسفه میشنن بحث میکنن دارد اگر دارد احسن سوار ماشین شدی ماشین هوش مسئولی داره یه یهویی تا بچه کنار خیمهون وایس دادن یه تصادف میخواد رخ بده تو رو نجات میده یا چهار تا بچه رو میکشه یا برعکس کی گفته چرا باید این کارو بکن آفه اینجا من میگم ما یه ساختاری داریم روی حب و بغز و منافع و بقا و این چیزا آدم جون خودشو برمی داره ای از اون شهادت طلبی هم داریم ما ایسار هم داریم این چطور برای این میخواد تعریفش خیلی فراتر از این بازی که آقا هوش مصنوعی میاد دیگه مثلا ما راحت سرچ میکنیم هوش مصنوعی میاد مثلا ماشینا با هم کمتر تقطرا با هم نمیخورن اینا چیه چالش بزرگی در پیش است بسیار بزرگ او میفهمه خب بوقزم نداره کینه نداره ولی کینه کنه الان شما هم چت جی پیتی هر فوشی دوست دارید بهش بدید ببین چه جوابتون جو میده از اینکه ناراحتتون کردم عذرخواهم مثل آدم خوبا جوابمونو میده فرق اینم بگم فرق منو, منو توی انسان به اون فرشته تو چیه بردارم میگید من اختیار دارم دو من خوی من رو ببین این روح من روی چی نصف شد اینستال شده بو سخت افزار حیوانی برای همین میگه چی؟ یکی عقل محض بود فرشته یکی شهوت محض بود چیه؟ هیوان خودمان دوتران قاطی کرد انسان آفریده که باید از این شهوت بگذره به عقل محض برسه خب بفرمایید الان هوش مصنوعی شهوتش کجا بوده گفت آقای آدم برای چی می آفرینی دیتابیس دیتابیس فرشتان درست داره میگه میگه قبل شما این نسل میذین که ما در روایات داریم موجودات شبیه انسان قبل ما زندگی میکردن رو زمین اسمشون نسناس بوده همینا ناندرتال ها و چه, و چه. بسیار مذهب پیشرفت و مدرنی ما داریم روزی میینه اطلاعات داریم روزی حدیث داریم ما اینا اونا رو دیده بودن گفتن خب این حتما جنایت میکنه خدا چرا میخوای می‌خوای رو اضافه تر هم بکنی اون فلان فلان شده فقط چوب بلد بود بر داره پنج تا نفر این مثلا بنباطون هم میتونه بسازه فرشته این کار خدا خدایا <تصدق> با دیتابیس او اینه دو حدس میزنه میگه بچه دو سالر چاقو بده دستش بله سر خودش میاره تحلیل داره میکنه خدا چی فرمود ان اعلم و ما من یه علمی دارم شما نه مسئله علم است مسئله دیتابیس است. مسئله دیتا است. من یه چیزیام شما انبه هم یا آدم بس ما هله یه فلش زاد بهشون اینا آبده شدن فسجدو بلا فاصله سجده کردن پذیرفتن. الا ابلیس میگه اون از ملائکه نبود اون به فرق داشت. که سر همون حالا 1400 چالش و صحبتو باستم که اصلا میترسم مطرح کنم چون وقتی شبه رو خودم پاسخ دادم هیچ دیگه نمیشه جمعش کرد. خب بلا فاصله پذیرفتن الان شما میگی آقا نمیدانم اطلاعاتشو به روز میکنی جواب میدید اما امکان خطا از فرشته وجود ندارد دیگه لایعسون اینا اوسیان هرچن اینا اختلافی من قول معروف رو دارم بگم خب یک کلام ختم کلام شما دارید فرشته خلق میکنید اینا هم داره تحلیل میکنه فرشته اختیار نداره مجبور به خوبیست میگن گفتم اختلاف نظرها <تصفيق> اصلا مسئله اصلی در مورد اسمت علم است شما وقتی علم به چیزی نداری گناهت هم میبخشن میگن نمیدانست نبی خدا وقتی علم بیشتری داره یه خورده رو ترشن بکنه خدا مثل یونس میچه تو شیکم نهنگ حسنا سیاد سی حسنات اببر سیات مغرین اون چیزی که برای ابرار خوبه بر مقربین گناه ها. بچه دو ساله شمال غذا درست بخوره میگه باری کل بابایی ما شالله آاشق و تو دهنش تو اونج غذا بخوریم یا مت رو خجالات ما خجاده میکش نصف بر ببین اینا همش با همان 100 ها سوال پیش میاد من یک کلام حتم م گفتم میخوام طولانه رو میشم اینکه آیا ما داریم فرشته خلق میکنیم؟ و آیا ببین وقتی شما همیشه بهترین را انتخاب بکنید بهترین را اختیار کنید شما مجبور مختار مجبورید اینو نداشته باشید شما همیشه میتونی بهترین را... چرا ب... غیر اینو انتخاب نمیکنی؟ با اینکه تو نداری. برای اینکه هورمون نداری. ما آدم وقتی با هم حرف میزنیم دوپامین میگیریم هورمونه. تو خانوما بیشتر از متراشم میشه. برای همین دیدین چه جو صحبت sohbat خب این لیوانو گذاشتم اینجا آره لیوان سفید آره راستی گفتی سفید رسن لباس عروس دیدم آره خدا خب... بگم چیکار کنم مادر شرم یاد عروسی مافتادم این مکالمه ته نداره اون میگه, میگه میای با هم بشینیم به هم سرویس دهی دوپامینی انجام بدیم با هم حرف بزنیم گپ بزنیم چیکار کنیم دوپامین بگیریم این دوپامین لازم نداره برای نمیگیره این چی میشه ژن یعنی چی یعنی لرن ببین تو جهش ژنتیکی کردی من و شما ببینید مثال بزنم شما نگاه می‌کنین مثلا اونهایی که تو استوا زندگی میکنن از نظر ریخت شناسی به هم شبیه ترن رنگ پوستشون تیره تره. به خاطر چی؟ به خاطر آفتاب بیشتری میخورده ماده یه نم ملانانم چیچی و ترشو زیر پوست که این اشعه یووی رو با جزم نشه و این قصه ها خب هرچی به سمت شمال میری سفید میشن هم خرسش سفید میشه هم روباهش سفید میشه هم آدمش کمرنگ میشه درست شد؟ یعنی, یعنی من و توی انسان هم لرنینگ داشتیم متناسب با محیط تغییرات در اون وجود داره همین الان تجربیات من و شما اینو بدونید شما تجربه دو زندگیم شما تبدیل میشه به جنتیک شما یکی از فرضیه های جدید علمی اینه که ما هم هنوز داریم این تکامل جنتیکی داریم انجام میدیم یعنی چی؟ یعنی تو فرزندمون این تأثیر میگذاره تو نسل بعد. منطقی این تأثیرات انقدر کمه که ما متوجه نمیشه یه ده هزار س یه مثلا سی هزار سال بگذره ببینیم این چه اتفاقی داره رقم میزنه پس ما با چالش های فراوانی از نظر شرعی اخلاقی علمی آقا انقلاب صنعتی کارگر کار انداخت یه <laughs> ربات میومد کار چی کام کرد یه ماشین رو بخواد هوش مصنوعی باهوش رو بیکار خواد می‌خواد چی؟ مثلا میخواد می‌خواد چیکار کنی ما مورزت... نماز با میتونم خود نماز بخونه گفتم هم تا بریم بریزم بیرون یه چهار تا دیگه این ها نسب کنم <تصفح> به شوخی واقعا اتفاق داره میفته آقا این پرونده ها رو قضاوت خواهد کرد بیدون رشو نمیتونه بشه بدی تموم شد این ب... اصلا زبان لازمیست شما دیگه یاد بگیرید فراموش تمام مترجمی بود تمام ده سالی جمع میشه یه اینفلات انجام میدی به تمام زبان های دنیا مسلطی. یه عضو جانبی داره مغز شما، عضو اکسترنال داری. به تمام زبان های دنیا حالا همی... بعضی از این چیزی که دارم بهتون میگم تو ایران آزمایش شده. بخشی از اینا شما خودتونم خبر نداری دانشگاه خودتونم به کارش صورت گرفته. ما وقت بالاتر ببینید. شما تو اختیار اما اختیار از اگر اسکار ببین اختیار میدین چی تو فکر می‌کنی شاید انتخاب او بهترین انتخاب بوده در مقابل انتخاب بعد من من میگم تو باید حتما حرف منو گوش کنی میگه چرا باید حرف تو رو گوش کنم اینجا باید چیه بقائما میگه دیگه بقائما من میگه من حرف من با پیش بره این مناست دیگه همین نفسی که داشتم برمی‌گردم این شهوت است اون میگه چرا باید این کار کارو یک جا میگه که آها من این ده نفر رو نمی‌کشم این ده نفر رو میکشم. اون پروفسور فلانی نمی‌خوام بکشمش دیتکس کردم چهرهشو شناختمش اون برای بشریت بهتره فقط همینا رو میخونم من این کار این کارو نکرده بلوتو دو تا دخترش میگه بیا بیرون بیا بیرون من با اینا کار دارم یه شهر رو با شتاب سنگ نابود میکنه میگه شما سه تا چیزیتون نشوید بیرون پس این باید و نباید ببین ساختار میشه به نظامات اخلاقی رو چه مبانی چی خوب است چی بد است این همه حرفینه تمام دعوای دنیای نه الان شما از این هوش مصنوعی پرسی سوال بپرسید اینا واسه دستکاری کردن دیگه خب یعنی واسه محدودیت می‌ذارن پیش بپرسن مسیحیت میگه مثلا مسیح میگه مسیح میگه ایسا مثلا پای... اسلام میگه که پیامبر رو راست میگه میگه با کدام نظامات اصلا گردن نمیگیره شما دیویس با به ما خودمون اوستا این کاریم چندیم همیشه دور میزنیم وقتی یه جایی یه پرایوسیای داره نمیخواد باج بده ما بلدیم دور بزنیم اما یه جایی میره براش تعریف کردن نمیذارن خب همین نمیذارن رو کی گذاشته اون باید و اون آدم تعریف تایید کردن بالا اونو بالا تو من و شما انسان مختاری الان میتونم میگم خدا وجود میگن این آب برای مثلا چمینم برای تشنگی رو دوست ندارم بخورم خود خب خودکشی کنم میخوام میگم فلان کنم هزار کار میتونم انجام بدم میگه درسته خب شما میخوای اینو اینطور آزاد بگذاریش یا نه بخش دیگری از جبهه رفتم جبهه اختیار گستر است بخش از جبهه به اطلاعات برمیگرده شما خیلی مثلا یه لحظه یی یه, مینی... یه فیلم برد پخش کردن ریختن اینجا آقا فلان کردن به همان کردن داعشیا مثلا ریختن میگم اسرائیلی‌ها ریختن یه اصل هم کنارش علم احتمالات میگه تو مثلا 99 ها اینقدر درستت اصل هر برمیدیره خود دفاع کنی په تو رو مجبورت کردن با اطلاعاتی بهت دادن تاله ژاپن رفتی؟ نه مطمئنی ژاپن وجود داره قسم از اتباس میخوری ژاپن وجود داری یا نه از کجا؟ تو که ندیدی که تو با علم میتونی به یقین برسی با علم میتونی به یقین برسی برای همین یه نکش ترس هوش حوش مصنوعی و دیتابیسش. خیلی مهمه. دو های تحلیلیش. الان کجا باید بفهمم؟ استاد بهش میگه ببین. اگر تو برنامه نویسی. میگه برایش پروتوکل ایفایلس میزاری. میگه که اگر لایک گذاشت یعنی خوشش اومده. این معادل دوپامین بگیریم. معادل هورمون پاداش بگیریم. خب اگر گل گذاشت فلان اگر نیشش خیلی باز شد این ایموژی رو گذاشت فلان اگر یا ازش با یک رفتارهای شما باید بسنجی این مسئله اصلیست در انسان این شهوت است بقا است که عجیب این موجود بر این قلبه میکنه و آخر جان خودش رو در راه خدا فدا میکنه همین انسان یک رفتار زده بقا انجام داده ها برخلاف بقا انجام داده من نمیخوام بشه ببخشید یه سلام دفرست بینید این دوست عزیزمون یه مسئله مطرح که هر گفتش که مثلا فلانجا یه مثال نغزی رخ داده من میخواهمتون بگم بعضی از این مثال های نغز اتفاقا برنامه ریزی شده است الان دارن روی این قضیه روی این پروژه کار میکنن که چی که هوش مصنوعی کاملا خودخواه بشه یعنی حتی شما یه سری دستورات یه سری مثلا چه میدونم اطلاعات ازش بخواید یا امر رو نهیش بکنید گوش نده چرا این کارو دارن میکنن برای اینکه بتونن از خودش محافظت کنه حالا میدونن ظاهران مثلا این طور صلاح دیدن که بعضی از انسان ها سو استفاده میکنن بیگاری میکشن از ربات و از هوش مصنوعی ظاهران دارن این شکلی رو این قضیه هوش کار میکنن که بتونن از خودش محافظت کنن حالا یه نکته دیگه میخواستم عرض کنم خدمتتونم حالا تو بخش اول عرایضم فرصت نشد گفتم ببینید صحبت حقیقت توی دو حوزه است یک حوزه بالا دستی یا در واقع نظریه پردازی هوش مصنوعی یکی تو حوزه پایین دستی و بحث کاربرده عمده مباحثی که امروزه داره مطرح میشه چه تو دانشگاه ها چه نمیدونم توی جامعه ما توی قشر متوسط جامعه توی قشر عموم عمدتا تو لایه پایین دستیه تو بحث کاربرده یه چیزایی که مثلا از هوش مصنوعی وقتی برای یکی میگی میگه واو اینترستینگ خیلی جالبه ای و مثلا میدونستی یه هوش مصنوعی اومده یه روباتی اومده به اندازه ده تا دانشجوی دکترای شیمی میتونه تحقیق پژوهش بکنه. چه جالبه ای نمیدونستم. و چیزی نیستیه. خیلی بیشتر از ایناش هست. زمانی که آی او تی بود مثلا اینترنت آف تینکس. خیلی برایشون عجیب و وغمگه میشه. حالا همین الان یه اتفاق داره میفته. ببینم گلدون خونه رو به اینترنت وصلش میکنن چون میدونم لامپ دستشوی وصل میکنن به همه چیز رو دارن وصل میکنن بهش یه چیز کاملا طبیعی شده منطقه یه چیزی که خواسته ای اینه که ما رو تو همین سطح نگاه دارن امیغ نشین بحث مهمتر اون لایه بالا است. اون بالا دستیه. اون بحث نظریه پردازگیه در زمینه ارتفیشال انتلیجنسه ببینید عزیزان من یکم تو بحث تو همین لایه دستی و نظریه صحبت بکنم بعد میام تو بحث کاربورد و لایه های پایین دستی باز از سن صحبتای بکنیم که شاید کمتر مطرح میشه خیلی جون ما یک هوش پای محور داریم یک هوش اشراق محور داریم ببینید وقتی راجع به روح صحبت میشه توی هوش مصنوعی اینکه بعدا میتونی یه کارای انجام بده نمیدونم تصمیم بگیره سوال بپرسه اینا حد یقفش کجاست تا کجا میخواد دان پیدا بکنه به ببینید عزیزان یه نکته ای هم باز استاد عزیز اشاره کردن گفتن که آقا اگر ما مثلا مقدماتش رو فراهم بکنیم مثلا ما دیتابیسش رو داریم آماده با یه اینتر خروجی میگیریم دیگه کاری نداره آیا این شدنیه من میگم بله این شدنیه چطور ما اصلا در عالم فیزیک در عالم ماده چه این چیزی رو داریم شما kursi رو که آماده کنید یک چیزی بر اون ظهور میکنه یا فلاسفه بش میگن مذهر شما اون مذهر محل ظهور رو که آماده بکنی ممکنه که اون اتفاق درش سورا ممکنه هم نشه مثلا مثال ساده توی آب ملکول آب دوتا اتم هیدروژن با یک اتم اکسیژن تشکیل ملکول آب میدن هاش منتها ها این دوتا این یعنی دو دوسنخ ملکول این دوتا هیدروژن و این اکسیژن تا با هم ترکیب شدن سری میشه آب چه اتفاقی این وسط رخ داده به لحاظ فلسفی ها. میگن ترکیب اینا با هم یک زمینه فراهم کره یک مذهری یک کرسی فراهم کره که این جنس آب بر این ظهور کنه متوجه شدید حالا یعنی ممکنه مثلا ما یک جسمی رو فراهم بکنیم به واسطه همین مولکول ها بچینیم کنار هم دیگه. یک جسمی رو فراهم بکنیم که یکی روحی درش حلول کنه و درش ظهور کنه شدنی هست میگیم بله شدنی هست میشه اینو یه جورای دستکاریش کرد که مثلا فلان شکل در بیاد این که دیگه طبیعیه بابا اصلا نذارید ما وقت اون رو به این چیزا بگذارونیم الان نمیدونم زن و شوهر قبل از اینکه بچه دارشن میرن آزمایش میدن و میرن نمیدونم هزار یک حرکت میزنن که نمیدونم بچه‌مون که به دنیا میاد چه چه رنگی باشه دماغش چه شکلی باشه موهاش بلند باشه هست اینا چیز خاصی نیست توی اسرائیل خیلی جالبه برای من که بعد از طوفان العقصایی که شکل گرفت حالا مثلا شاید هفتههای بعد از هفتهو اکتبر بلافاصله ها مؤسساتی توی اسرائیل شکل گرفت تو یه چی هوش مسومی عجب شما که ظاهرا ته این ماجرا بودید پهچی شد سه تا م... مؤسسه هستن سه تا مجموعه هستن توی اسرائیل اینا دارن تخصصا تو هوش مصنوعی کار میکنن به عقیده من واقعا اگر بخوایم مثلا چونام انتقامی از اسرائیلم بگیریم بد نیست به اینا یه نگاهی بندازیم اینایتی به اینا داشته باشیم اینا دارن خدمات فناورانه و تکنولوژیک به وسیله هوش مصنوعی میدن بر ارتش اسرائیل و همین سامانهای پدافندی و اینا رو دارن به واسطه همین مؤسسات اداره شخصی است به نام آقای شالف هولیو این شخص رو بهش میگن پسر بد سایبری اسرائیل اصلا معروفه لقبش اینه سیاش بکنید میاره که <تصفح> این شخص در واقع امپراتور اسرائیل اسرائیله ای داشت به نام NSO گروپ که این در واقع من بخوام بگم شما بشناسید سازنده و خالق اون بدافزار جاسوسی پگاسوسه که تحسیصات از ما رو مورد تقاجم قرار داد خیلی جالبه انقدر این بدافزار ضد بشر بود و انقدر آور بود امریکا اینا رو گذاشته بود تو سیاهشون امریکا حالا همین شخص که یه مدتم تو رسانه ها بعد در رفسمشو بعدم تعطیل کرد و گفت باشه حالا ما اون جریان رو تعطیل میکنیم و درم در اون رو تخته میگیری میکنیم اخیرا یهو دوباره بعد از طوفانان اقصا ظهور پیدا کرده دوباره اومدن شخصیت جدیدی به خودش گرفته در غالب مجموعه تحت عنوان دریم سکیوریتی یا اینتل آی این مجموعه ها الان بزرگترین و اصلیترین ترین شرکت که دارن به اسرائیل خدمات فناورانه در حوزه هوش مصنوعی و تو حوزه امنیت و دفاع دارن اینا به اسرائیل متاسفانه یکی از سوء استفاده کنترین بگم رژیم در طول تاریخ بشریت همین اسرائیلی یعنی واقعا اگر بنا بشه جلوی کسی رو بگیرن جلوی رژیمی گرفت جلوی طویله گرفته بشه توی بحث هوش انسانی جلوی همین رژیم قاسم و سحیونیست اسرائیل چون داره سو استفاده میکنه. اینجا ما نباید قفلت کنیم ما هم تو حوزه کاربرد باید دست برنده رو داشته باشیم و واقعا باید ایده داشته باشیم الانم تو بحث کاربرد حالا ایرانی‌ها دارن یه کارهایی میکنن خدا رو شکر و یک چیز دیگه ای رو هم که اینا اصلا لحاظش نمیکنن ذائقه و هوش ایرانیه ببینید شما با هوش مصنوعی هر طور که مواجه بشی هر طور که باش صحبت بکنی همونطور میتونی ازش پاسخورد بگیری مثلا یه امریکایی می‌شینه با هوش مصنوعی یه نوع پاسخورد میگیره یه ایرانی می‌شینه یه نوع پاسخورد دیگه می‌گیره میگن مهندسی سوال یا پرامپت انجینیرینگ که شما چطور چی ازش بپرسی که چه جوابی بگیری یا این که حتی ازش بخوای چطور به شما جواب بده آقای هوشمند مثلا شما به شغله پزشک به من پاسخ بده تو این یا به من مثلا مشاوره بده که اینو بهش میگن اصطلاحا رول پرامپتینگ یه قوانینی داره یک چارچوبایی تو این حوزه من پاسخ بده ایرانی ها یک هوشی دارن تو این جریان یک ابداعاتی دارن که اونا اینو ندارن و فکر کردن همش مثلا همین 4 تا عدد و ایناست منطقی که اونا خوندن منطق فازی که اونها خوندن ما هم خوندیم صفر و یکایی که اونها اعداد باینری که اونها خوندن ما هم خوندیم و بلدیم سیستمی که در اختیار اونهاست در اختیار ما هم هست آقا اونا هنوز یانه یعنی امریکا تو بحث تراشه ها و تو بحث خیلی از سخت ابزارا محتاج چینه و تایوان مخصوصا میخوام بگم شیوه مواجه هم خیلی مهمه که ما چطور استفاده بکنیم از هوش مسئی تو بس کاربرد. اما دوبار برییم تو اون بحث, بحث بالا دستی و من تقدیم کنم وث ادامهی وه استاد عزیزم. همینه که خب حالا ما کاربردار و اینار رو دیدیم خ تهش که چی؟ و این میخواد به کجا برسه میخواد ما رو با چی مواجه بکنه؟ اینجا همون نکته که عرض کردم خدمتتون. ما یک علم در واقع یک هوش اشراق محور داریم. و در مقابل یک هوش پای محور داریم این هوش پای محور بله میتونه در هوش مصنوعی ظهور کنه به واسطه ما ولی اون هوش و اون روح اشراق محور نمیتونه جمانه که شما یک ربات رو نمیتونی به عنوان مرجع تقلید بذاری ازش پیروی بکنی دلایلی هم داره فلسفی آقا مرجع تقلید حتما مثلا باید شخص زنده باشه باید نه نام شیعه اسم عشری باشه تمام اینا نیاز به قصد داره نیاز به اراده داره نیاز به اشراق داره از اوالم بالا انسان باید اینا رو دریافت کنه اینا به واسطه این به دست نمیاد حالا یه حدیثی هم هست من دیگه لفتش نمیدم یالا اینا اگر فرصت شد بعدا عرض خدمت خدمتتون حدیث نفس کومیل و حدیث نفس اعرابی اینو آقا امیرالمومنین مفصلا اشاره میکنم ببین انسان مثلا پنج نوع روح داره خب مؤمنین مثلا انبیا و رسول پنج تاشو دارن مؤمنین چهار تاشو دارن بقیه سه تاشو دارن این سه رو میشه توی بحث هوش مصنوعی برنامه‌اندوزی کرد ازش استفاده کرد یه صلوات بفرستید صلا الله علی خب خیلی سرفصل مفصله من خب راجب خیلی از شد از کامنت دارم نظر دارم اونجا خیلی چیز میشه پراکنده میشه ببینید اولا اگر راجب ضرورتش بخورده حرف بزنیم من نگرانم اگر دیر بجنبیم از غذا خیلی جدی میدونم ماجرا رو اگر اونا زودترین ارسر به دست خودشون بگیرن دیگه راهمون نمیدن. راهمون نمیدن اصلا نه از نظر قانونی مثلا ای باشگاه هستی درست کنن و مثلا نه الزاما. اصلا شما دیگه یهودی پنجاه سال عقب میافتید. این چرا؟ ببین توی هوش مصنوعی مسئله مساله دیتابیس و دیتایی که شما میگیره خیلی مهمه. خیلی مهمه. امروز چرا گوگل میاد سرویس هوش مصنوعی راه میده؟ به خاطر اینکه دیتابیس داره که کمتر کسی داره. سرچ های مردم چرا خدمت شما عرض کنم شرکت هایی که اصلا گوشی موبایل دارن میسازن اینا وارد پوشه مصرویی میشن برای چی به خاطر اینکه به اینکه این یوزرهایی که از این گوشی ها استفاده کردن اطلاعاتی زی قیمتی بهشون دادن و برعکسش چرا مثلا آقا ماسک میگه من ممکنه گوشی هم بسازم بدم بیرون او میخواد عکس این متناسب با اونها به اطلاعاتی رسیده که میخواد سخت افزار مفید برای این کار تولید کنه ببینید اگر صدای من رایفی پور یونیکه یک دونه از صداست ده ها شاخصه. ما شرکتی رو ما ما مس وا وعده داره کارهای بزرگی هم داریم انجام میدیم از دست این پدرسوخته ها میتونیم میترسیم بگیم چیکارا کردیم. یعنی پدرسوخته های سیاسی منافع ملی براشون مهم نیست اونم میزنن باورتون میشه حالا یه سری اتفاقات خوب خواهد افتاد ان شاء الله باذن الله خواهید دید به مثلا 512 تا پارامتر رو توی چهره بررسی میکنیم این تخصصی روی حوزه چهره داره کار می‌کنه. یعنی منو شما الان مثلا میگیم آقا تو ترکی مثلا اینو فهم می‌ره، میگه قیافه‌ش عین ترکاس. آقا تو مثلا مشهدی، تو رشتی، تو کردی از کجا می‌گیم؟ یه سری پارامتر پارامترها داریم. هوش طبیعی‌ها میگه اینه که مثلا قدشون اینجوریه، بورن، دماغشون اونجوریه، چشاشون اونجوریه، گوششون اونجوریه. حالا این داره چیکار می‌کنه؟ 512 روزی که بعد تست اومده بودن پیش خدا من من خب این چیکار می‌کرد؟ دیتابیسش چی بود؟ چقد دیتابیس فقیری داشت بچا؟ افرادی که تو ویکیپدیا پیج داشتن یعنی معروف محسوب میشدن ویکیپیدیا فارسی رو از هر کدوم اینا میرفت گوگل میکرد 14 تا عکس اولشون رو برمیداشت برمیداشت از اون میفهمید رائفی پور یعنی کی چه چهره‌ای، 500 خورده پارامترم تو چهره برسو یعنی چی فاصله اینجای چش تا اینجای چش زاویه چشم بمیدنم چی چی فلاف بعد گفتم به خود من تست یه عکس موقع از من گرفتن همونجا دادم بهش خب سری شناسایی من صورتمو گرفتم خب از این 512 تا مثلا اینجا صورتم گرفتم جوری دهانمو ده ببینیم مثلا مثلا ماس بزنی با دست گرفتم اینجا چه اتفاقی افتاده یا مثلا 150 تا شکس شده بش بازم هنو 300 خورده مونده میتونه شناسایی کنه اصلا شما یک چشوتو بزا بیرون مثلا شدی اینجاست که این از من و شمای بشر یقینا رد خواهد شد با تریلی رد خواهد شد اصلا تصم... اصلا وقت خودمون تلف نکرد. من صورت همه که نگه داشتم جمع خورده عوض کرده بودم یه جای داریم ما اینی که دارم میگم این اتفاق مال 6 سال پیشه یه جا نشریهی داریم مجله میذارم اونجا این منو که دیتکت کت شناخت هیچ عباسلی کت خدایی رم پشت روی مجله شناسایی کرد گفت این که توی اونم تازه شناختمش اون از ازش نخواسته بودن <تصفيق> چون اون هم ویکی داره سن رو تشخیص می دار. جنسیت و تشخیص عکس بچهگیر رو میدادی میگفتین کیه از پشت گیریم بعضی از هنرپیهاهایی که گیریم خیلی سنگین نبودم شناسایی میکرد خب میخوام میگم این دیتیک چهره الگوی تایپ من و شما با کیبورد منحصر به فرد بچه ها الگوی تایپ کردن این به انگشت این منحصر بفرده یعنی شما دارید از یک کامپیوتر استفاده میکنید بعد سی 30 سال شما رو مینازه بیرو میگه تو صاحبش نیستی دوربینم بسته ای نمیدونم چه صدا هم نگرفته به فرز. مدل راه رفتن من و شما خاصه حالا هوش مصنوعی می چکار میکنه همه اینها رو وقتی با هم بگیره شما یادم اطلاعاتی حزب لبنانی اوکی گوشی هم همراهت نمیبری رفتی تو سوپرمارکت یه خرید کنی آدم هستی با بزنی نه کولاام گذاشتیم ماسکم زدی خود این یه الگوی شناساییه برای دوربینا اونی که کلا میزنه ماسک میزنه میخواد شناسایی نشه این خودش نوعی از قرباله اینجا فقط یه دنیا دنیای ادعای ها چقدر این پروتوکولا هوشمندانه بشه تا میرونجا میگه آقا ببخش مثلا چی بگم یه نوشابه می‌خوام می یه چیز میخوای بخای صدای شما رو چی انتقال میده گوشی اون ساب مروزه میگه فلانی اینجاست این پرهوازی که دارن میچرخن بالا سر خب و مسئول کارشون شونده همینه همین گلوبال هاوکی که ما زدیم تا 600 کیلومتر رو شخ میزنه یعنی لب خلیج فارس داره میره تا اصفهانو داره در میره و بیشترش یعنی اینجا تکنولوژی بسیار بسیار مهم است طرف اینکه من گوشی با خودم نبردم چی چی نبردم چی اون که گوشی داره یه مثال دیگه شما خیلی زرنگی شماره تلفن هم به نام خودت نیست مثلا اون شوکاشت می‌تونی داری کار می‌کنی بعد میگه فردا گیر نیافتم مثلا یه کلاهبرداری میخوای انجام بدی رو تو, تو گوشیای مردم تو چی سیو می‌کنی تام هر نام افسر هست اسم هر کسی بزنی میده بیرون میگه تو گوشیای مردم اینو اینو اینو می‌سیو می‌کنی این چه ساده است اصلا این هوش نیست این فقط یه دیتابیسی جمع کرد ما تو جماوری دیتابس عقب خواهیم افتاد حداقلش اینه دیگه فرصت این دیگه اصلا مردم گوشیتو دست نمیگیرن نرمافزار رو تو رو نصب نمی نمیکنن از مرورگر تو استفاده نخواهند کرد میخوای ببندیش چجوری میخوای ببندیش بگیر برو تو حجامتون کنی اگر دقت کنین الگوی توسعه تکنولوژی محور ها در همین زمین است که حکمرانی خودشون بس بدن اینترنت ماهواره ای که باز شما می همین الان مثلا ماسک جزء پیشگامانه شه چجوری میخانو فیلتر کنی او استفاده خواهد کرد بدون فیلتر چک کردم استفاده خواهد کرد صدای منو شما میشناسه ما مت... تخصصی میگه اینه حالا من یه مثال میتونن الان واسه کنید این لپتاپ منو من قرأ دعاء الكمیل یمتلئ بالشعف کم هذه هم صدا هم لیپسین و خود خود منم آمن نیست یا مثلا این فقط عربیشه بعد از اینا الان مثلا یه ایش در عراق از من یه کلیپ خواستنی دانش کنید بعد ما به تیر سیدیم برای ابن این کار بکنیم و فرستادیم هیچ کس اونجا متوجه نشده یعنی من عربیس اومدیم برای از این مسئولین etlatiyan ferestam bera ferestam ma sha allah aga ma nemisim inqat shoma mesela musallati du falan kho یه واندخواده سال آمریکا بود گفت انقدر خوب بود من کردم بعد اینا دارن لرن انجام میدن یعنی یک سال دیگه نه سه ماه دیگه چهار ماه دیگه پنج ماه دیگه این افتادن به جون هم دارن رقابت انجام میدن خطرنط نیست <تصیح> شما کجا میخوای تشخیص بدید؟ حکمرانیشو داری؟ فردا کلیپیون با یه کشور ریخ بهم. از مسئولین سیاسی مثلا یه حرفی داره میزنه آه برزید خیابون دونم فلان کنید بمان کنید چقدر فرصت دارید چجوری میخواد جلوی این رو بگیرید زیرساخ نیست اینترنت دسته نیست تو زیرساخ تو اون چیپست رو میتونی تولید کنید نداری. برای همین یهویی پنجاه سال صد سال آقا بیافتید این یه نکته نکته دوامی قط نکنید بازید باشی کار جوری بشه که من و شما الان جون میکنیم پول جمع کنیم بریم گوشی خوب بخریم این میاد خودمون میریم پول میدیم که چیپست بزنیم تو سرم امپلنت کنیم شک نکنید همین الان کپس اومده کلاه اگه بذاری زیر پوستت بهتر چرا چون مغز ما دو جور کار میکنه امواج الکترومغناطیسی تولید میکنه دو ماده شیمیایی ماده شیمیایی خزینه‌دار برای مغز برای همین الگوی رو که ساخ یک بار رد تولید کرد میره روی چی روی امواج الکترومغناطیس. اگر امواج الکترومغناطیسی خانش بشه اوکی؟ دیتکت بشه همون فرمانو شما میتونی کپی کنی آیا راجب یه چیز مقوله انتظاری داری حرف میزنی؟ نه خیر راجب محصول دارم حرف زنم. با هم ببین راجب محصول خانم که دستشتکون میده این حرکت به واسطه سلسله اعصاب دارین کار انجام میده درسته این شناسایی میشه نگاه کنید روی اون کبلتون رو کنید میریم جلو okay. uh, این آقار میاره تکس میکنه، لرن میکنه، حالا این چه اتفاق میفته یه سری سنسور زده روی دستش این عصب دستی جا داره فرمان میده به ازولات اینو میگیره. میده به آقای اقلا So now I'm going to move away and I'm going to plug it into our human-to-human -human interface over here. Okay, so Sam wants you to uh, squeeze your hand again. All right. Do it again. All right, perfect. So now I'm going to hook you up over here so that you get the... It's going to feel a little bit with your hand. All right. I've turned it on. So go ahead and turn your hand. Uh, do you feel that a little bit? Here okay, you can detect it. Look oh, it. A little bit. A little bit. Dess uh -huh. okay, to the phone, look at it again. نمیدن جلویش ها فرمان مغز اون خانم رو رو دست این صادر بشه یارس چی شد؟ این جلوی تام چی میشه؟ الان دلش میشناسش میگه به خاطر حرکت فیزیکی نیست. میگه خانم شما متوقف کن مغز تو نخواه اراده نکن. پالس, ال... پالس نفرست. پالس عصبی نفرست. ببین به خاطر حرکت دستش نیست دا. او اراده بکنه این میفته میافته. ببینیم تکون نمیخوره دست Because the brain has to do it. Now, so you do it again. All right, it's perfect. <laughs> all right, well, uh, thank you guys for being such a good sport. This is what's happening all across the world. Electrophysiology. And we're going to bring on the neural Revolution. Thank you. Okay, you're getting implant. Not implant. This is right now on the phone. Right? It's a very easy time to get out of your phone. It's a very و اون امواج و امواج الکترومغناطیسی مغز رو نمیگیره. این که هیچ یعنی راجب عناصر خارجی من صحبت نمی کنم خارج از بدن شما. خودت میری پول میدی، میدونی چرا چون صرفه داره، چون یهویی تو میشه علامه زبان. بعد اونی که کل زیر ساخت دستشه، شبکه دستشه، اینترنت دستشه، امروز رئیس جمهور تعیین میکنه تو آمریکا. درست شد با یه سری از اعضای بدن شما چه کارها میتونه بکنه کجا را میفتید میرید آقا یه دکمه زده میشه هرمون خواب ترش میشه همتون میخوابید اون دستور و ترشوه خواب چیست؟ کپی میزن کاری داره؟ حالا آخر از زمانی شد تازم آجرا حالا؟ حالا تازم آخر و شد اینجا چقدر آماده شو حالا بخشکی از اسقری فرمودن که آقا ما مثلا خدای اون امکان بله بدونید مثلا فقط کافیه این خاصیت سی بی شکل دور کره زمین آب بن بره این که سیف میکنه ما رو در مقابل تشعشعات خورشیدی ممکن آب بره بله به خاطر خاصیت مگنت بودن دیگه زمینه دور زمین چیزش سی بی شکلی هست خب خدا ما قرار دادیم که نه. نفوذ نکنن در قران داریم آیش بعد جای قطب‌ها داره عوض میشه الان قطب شمال اومده رو کانادا این به خاطر مواد مغناطیسی داخل زمینه داره جابجا میشه این یه خورده جابجای بیشتر بشه این خاصیت سیبیشه گاد دست میره بره چی میشه این تششعات میرسه زمین بر زمین چی میشه تمام وسایل الکترونیکی میسوزه کارم <تص> کن یا تمام سیستم های برقی دوشار اختلال بشه من اینو بگم یه خدای هست که اون آخر دوکشمای اینتر دست اوه خب استوب دست او. این بگم اما من نباید منتظر اون روز باشم من باید وظیفه خودم رو انجام بدم تو ساخت یه سری از این چه چیپست ها اینا ما اصلا فناوریشو نداریم مثلا. باید بریم بیاریم, بیاریم. عربستان و سودی و صد میلیارد دلار الان سرمایه گذاشتن پول گذاشتن برای بوی شما است صد میلیارد دلار. شما اصلا دیگه صحبت آمریکا و انگلیس و چین و اینا نیست بابا با همه عربستانی ها باید رقابت کنید تو منطقه مینو شوخی برداره مسئله کنترل بشر امروز مسئله اصلی کلیدیه بعد دانش میان رشته ای اینجا مهمه شما. ببینید اینجا میگی که آقا اون زیر ساخته اینترنت رو کی داره؟ اون طرف ژنتیکو رو کی میفهمه؟ این این, این همینه بلاخره وسایلی بود شما وست کردید این ابزار ساختش رو کی داره؟ اون تکنولوژی داره؟ اینو پیاده کنه روی سنسور های در ایرپاد روی ساعت تو همین گوشی که شاید دستتو گرفتی همین سیستم داره درسته؟ وسائلی تو مجبوری ازش استفاده کنید بعد اون موقع ترکیب اینها یک اتفاق عجب رقم میزنه. بله اتفاقات خوب رو ببینید. کورهایی که بینا خواهند شد. چرا؟ اصلا کور مادرزاده چشم نداره باشه. شما با این دوربین نصب میکنی رو عینکشو چیز خوشگلش هم رعایت تصویر رو میگیره. همون امواجو میفرسته رو مقصد شما میبینی من واجبه اون دو مثالی که در مورد معجزه زدن من وارد نمisham به خاطر اینکه بسیاری از این اتفاقات رو اون موقع میشه هوا کرد میگه تو شیر دیدی شیری اونجا نبود مثلا چجون خواست؟ کن رفتم لمس کردم تو حس کردی لمس کردی شما تو خواب یه چیزی میبینید اون وجود داره اما عین واقعیت برای شما لمس میکنید بوم میکنید میخندید شادید. چون تمام آنها رو خود مغز بازسازی میکند نمیتونه الان دید که ماه گذشته چه آزمایشی انجام دادن خیلی جالب بود دو نفر خوابوندن کپ گذاشتن روی سرشون و فیلم رو تبدیل کردن و مفاهم تبدیل کردن به انباد جلیتو فرستادن بر مغز جفتشون رو بیدار کردن یه خواب دیده بودن دو تا آدم مجزا یه خواب دیدن آره مثلا ما خواب دیدیم مثلا چه میدونم سیل اومد نمیدونم فلان شد بهمان به یه جای بودیم دور درخت داشت چون اینا یه مثال براتون بزنم این آبه شما درکی از این آب دارید بچه ها اینکه چه جوری بیانش میکنید اصلا مهم نیست ابدا از ذره اهمیت نداره تو بگو آب اون که بگی سود بگی واتر اون شکلش رو بکش اون که بگی من هر دفعه من اینجوری کردم مثلا یعنی آب قرارداد اینها شما چیپسه تو سرتون گذاشید رو برتون هم چیپستون شما به آب فکر میکنین مفهوم آب زاده می شود. انتقال پیدا می کنه اونم میفهمه شما به هم نگاه میکنین به هم حرف می بدون یک کلمه حرف را تو آدالش آادش. خیلی خوبه پس بریم کارو میکنیم نمیتونی جلو مردم رو بگیری همونطور که دم اینترنت نتونستید جلو مردم بگیری همونطور که صد جای دیگه نتون جلو مردم با تکنولوژی رفاه داره میاره. طرف میگم میشه زباندان دون تا 8 هر, هر الان گویا ترنسلت داره انجام ده هر چن چت جی پی تی الان داره انجام میده تووزه زبانی اونم میتونه انجام بده برای چی دونم یاد بگیرم وقتی خودم تو رشف کنم همون کرکودیل برین هم رپتایلین برین هم بگه برای سیو کار رو نکن علیکی کی برای چه بود سلام سلام حاله چطوره خوبم میتونید تاجیکستانی هم بلدی حرف بزنی آره میتونم به تاجیکی صحبت کنم چی کمک کنم؟ نه خوبه ببینید اه... کمکی میتونی به من بکنی؟ بله حتمی چی طور کمکت کنم؟ نه همین فارسی حرف بزن تاجیکی حرف بزن یعنی با لحجه ایرانی ها حرف بزن حتما با لحجه ایرانی صحبت کنم چی طور میتونم کمکت کنم؟ ببین میخوام دو تا بچه شیطون اینجا داریم میخوام بخوابن میخوام براشون یه قصه بگی اسم یکیشون علیه اون یکی مثلا بهرام علی و بهرام میخوان بخوابن یه قصه بش بعد اینا خیلی شیطونن اذیت میکنن تو قصت اینو ملاحظه کن که اینا نظم و ترتیب و اینجور چیزا هم داشته باشن بعد صدا تام یکم بیار پایین که بقیه بیدار نشن خیلی خوب بریم سراغ قصه یه روز علی و بهرام دو برادر کوچولو و پر از شیطنت تصمیم گرفتن به یک دنیای جادویی سفر کنند اونها وارد یک جنگل زیبا شدند جایی که درختها با نور خورشید بازی میکردند و پرندهها آواز میخوندند اما چیزی که بیشتر از همه توجیه علی و بهرام را جلب کرد یک قلعهٔ بزرگ در وسط جنگل بود شما با همین مقوله مواجهی مثلا شب میرم بچه‌ام میخوام بخوابونام با هم میخوابونام چی فکر کن مثلا بچه‌ام میخواد نقاشی بکشن چی میگم میگم یه دونه چی میخواد دخترم میگم یه دونه خودروش آموزش میگه یه دونه اینم گربه داره آزمایش انجام میده میگم یه دونه تصویر در کن یه گربه توی آزمایشگاه گربهم باید ناز و دوست داشتنی دخترون نق... و دخترونه باشه خب بدی میخواد رنگ‌آمیزی کنه سری بر من تابلوی کرد فرصت بده منم پرینت گرفتم دارم. یه نقاشی میشه این شو خودش درخواست داده آفر داده به شدت براش جذابه شما میتونید از پدر مادر بگی از این بح... از این سیستم استفاده نکن خب اینا نه صدام من نمیشه صدام دختر من نمیشه صدام پسر من نمیشه معلومه بعد شما فکر کنم مثلا تو سرویس سیست... سیست... مثلا جاسوسی مثلا نه الان خاموشش کردم آره اروا احمد اینا پوش کرد یه <تصفح> يه... یه يه... يه... شکل رو اینجا آبی بشه یعنی روشن نباشه یعنی خاموش این شکل مال توه <تصفح> اینش برای توئه که دلت خوش باشه شما هیچ همچین دنیایی مواجهه دارید بعد میگی من چیکار نکنم وایستم ما همش داریم چیکار میکنیم در حوزه هوش مصنوعی امروز ما توی 14 اُم و 15 دنیاییم تو چی فکر می‌کنید تو تولید علمش نه تو کاربردش ما داریم مقاله درست بر برای ها مثل دانش نانو که جز هفته اول دنیا بودیم نه تو کاربردش تو تولید علمش ما تولید می‌کردیم اون شیشه‌شو میساخت ما تولید می‌کردیم اون اسلحهشو میساخت الان هم تازه تو زهامونم 14 بودیم الان اوفول کردن شدیم 16م به خاطر مهاجرت چون همون کسی هم جزء مقاله مینه نوشت ما تو مقالات و علمونم رفرنس داده اینججا این اینطور بودیم الان چون دارن میرن خارج یه به اسم اون دانشگاه آمریکاییه دارن میرن به اسم یه نفر میتابیعت اونجا رو میگیره شرمند اونجا میشه دارن اتفاق میافته. بسیار یعنی الا با همه رو تعطیل بکنی بعد بیا این کارا رو انجام بدی کی با اینا کنه درگیر بنزینن برق روشن بشه خاموش نشه با اینا نه کار بلدن نمیذارن تو کار کنی اینش عجیبه مسئله دیگه آقا این فرصت من میبینم من دارم خودم دارم بهرمن میشم استفاده میکنم بیا به ابتکار تو به این دستیار خوبه ازش تو بهره ببری؟ من دارم از این بحره رو میبارم داحت کار دیگر میتونم انجام بده اینم بوش بکنید مهمه خب پرونده های قضایی چی میشه قوانی که از مشکلات جمهوری اسلامی تعداد زیاد قانونه ما کلی قانون داریم وقتی قانون مدرس نمانده مدرس, مدرس ما میخواهیم کنن مثلا یادشون نیست اونجا یه قانونی داریم با اون تضاد داره یه اداره قوانی الان تو مجلس چه آدمو بشینین با هیچ چیز تضاد نشه. جمع کنید همه اینا میشه مصونی انجام میده بابا. قاضی که میخواد حکم بده تمام جمع میشه. آقا 100 تا پرونده، 1000 تا، هزار تا پرونده مشاربه ملکی داشتیم. بیا اینا رو بخون، لرن کن. قانونم اینه بعد اون تو حکم قضایی بده. با چه سرعتی؟ کسری از ثانیه. 20 میلیون پرونده داری؟ همه رو یه روزه در میاری؟ این فرصت نیست، ادالت بر زمین بحث پیدا خواهد کرد چرا فکر میکنی تو زور این نیست؟ کینو گذاشتیم، پیشورزو کی گذاشت؟ نمیگیم شعن انسان میگه امرعتو زن، تجلس فی بیتها میشینه تو خونش و تقدر به کتاب الله و سنت نبی با کتاب خدا و سنت پیامبر فتوا میده زن قاضی میشه، میدون تو اسلام گه نشه. برای روحیات زن خوب نیست. ظاهرا روحیاتش درگیر نمی‌کنه دیگه. یکی دیگه است داره کمکش میکنه زنه که عوض نشده که. اون چیه داره کمکش میکنه همین امزار. آشپزونه آخر فقط امزار رو می زنه گریه ها رو، خون و خون ریزی ها رو و اینا رو لازمه اس ببینه تو رویاش اثر بذاره. رویش لطیفه. لطیفم باید بمونه چون زنه. نمی‌خوام زن مرده بشه مرد زن بشه. تمام بکنه بره. آيا خواحت توانس من نساری شما زدم دیگه. همجوری همین لایف داشتیم انجام میدادیم که نگه این داره میره گوگل میکنه نمیدونم فلان میکنه نه میتونستم سخت کنم من یه روز ببینم پسرم گفتش که من دوست دارم قله خیبر ببینم چه جوری بخور گفتم آقا اینو بفرستش گفت نه کتاب جادویی رو وا کرد رفت اونجا حضرت علی در خیبر داشت میکند و هم نشسته یه قصه گفتینم خوابش کن. خوابش نمیگه تو پندارم میگم طولانی ترش کن شروع میکنه آبستن آب ادامه دادن <تص> بعد این هیچیه در آن چیزی دم قالون چیزی که داره میاد همین الان چه جی پی ما فروشو داریم استفاده میکنیم دیگه خب پنجش رفت سنای آمریکا بحث شد گفتن کاربرد نظامی داره اینا هم گفتن نمیشه که رقبا ما دارن ارائه میدن الان قرار شده با یه اسم دیگه دیگه مثلا نگم پنج یه دیگه به اسمشو مثلا با اون بیاد بیرون چینی ها دارن کار میکنن اونا فکر کنید مثلا تو لرن کردن اون یه میلیارد آدم داره برای آموختن یه است شما مثلا میگی آقا قیافه مثلا یه نفر تهرانی فرض کنیم مثلا یه نفر روس چه شکلیه پنج تا بهش عکس میدی یه موقع است 5 میلیون بهش عکس میدی کدوم بهتر لرم میکنه معلومه ما اینجا دور افتاده بودیم گفتیم آقا این بیا در این بچا حمایت کنی 6 سال پیش میگفتیم 512 پارامتر فوق العاده عالی داره تشخیص میده مثلا چی بود میگفتیم یه دیتابیسی بدید که این چهره رو بتونه سنای مختلفو داشته باشه خیلی از این نرم افزارهایی که شما بازی میکنید خبر نداری تو پازل هوش مصنوعی لرن کردن هوش مصنوعی هستید مثلا یه, یه،, یه چالش می رو میذارن تو اینترنت عکس بچگیاتونو میذارید شما در دیتا بیس اون رو تگ میکنید میگه این بچگیش اینقدر 40 سالگیش اینقده لرن میکنه چهجوری این چهره بر پیر شدن بعد یه نرم افزار بر تو درست میکنه بازی میشه سرگرمی اینترتینمنت شما خودتون رو پیر میکنید جوان میکنید ببینم 50 سال دیگه چه میشن بات تو میتونه دست این دره الان که هیچ 20 سالگی تا میدونی چه شکلی میشی اگر حادثه ورده اتفاق نیفته تصادفی نکنه اریون زندگیت مثل بقیه ادم زندگی میكنا مثلا ما 40 میلیون گذرنامه و مثلا گواهی نامه داشتیم این دیتابیس در اختیار کی قرار میگیره برای کشور خودت که از این میتونی استفاده کنی همین بچه‌ها رو ما اینجا معرفی کردیم این کودکان کار هستن اینا اثر رو میکشن به دیوار، به چیز زبر میکشن اثر انگشت ندارن برم نمیتونی شناساییشون کنی وقتی میگیریشون. خب این بچه ها رو ما معرفیم که به بهزیستیه. یکی از این شهر اطراف تهران اینا رو عکس ازشون گرفتن. تموم شد دیگه. دیگه نمیشون در برن. کوتاه آش میکرد، بلند میکرد، یه خورده شاختر مثل لاغرتر هیچ راحت شدن سونی میشد. بعد ریل تایمی امروز اینا تو دنیا داره اتفاق میفته من سال دو هزار و هم بود، ایده بود 17 بود که میرفت بودم چین اونجا میگفتم مثلا خبرنگار نمیدونم آسوشیتد پرس کجا رو مثلا تو 6 دقیقه تونستم بفهمم الان کجاست مانورشون این بود اونم توی دستش بود <تصفح> ها 6 تا منتظر تا دستش رو بیاد بیرون. تمام دوربینا دتکت کرده من چهرهارو این دوربین پاس داد به اون این آدم اومد اینجا تو ز... چی میخواد در بره و شما در مورد ظهور در مورد یه دنیای صحبت می‌کنی فکر نکنم ام امام زمان تکنولوژی ها رو نابود می‌کنه این یه فرضیه است یه فرضیه هست هست همینا استفاده میکنه میگه یار امام زمان در روایت داریم می یاران امام زمان در احسان اوقات دون کف دستشو نگاه می‌کنن آخرین برنامه هر سوالی برشون پیش میاد براش برسه میشه خب یه گوشی دستشه براش برسه میشه دیگه یا در مورد صحیحه چهلز کردم فکر کنید این همینی که امروز چیز نبندنش AGI باشه بره تمام متون خطی رو بخونه بره تمام مناظرها رو بخونه بره قدی رو شخم بزنه بره شناسی کنه بره نمیدونم علم حدیث و درایه و همه چی رو این راوی سقس نیست چی چی صد تا چیزی که من و شما ملاحظه میکنیم ملاحظه میکنه, میکنه. میرین چه؟ ما اصلا یادمون میره اما یه جا دیگه داشتیم این بند خدا آواخر عمرش نسیان گرفته و پیر شده بود مثلا ما یادمون رفته اجازه دیگه این میدونه میگه این حدیث رو تو این سن و سال من این قبول ندارم اینجا تو همون سنی که تو گفته بودیم پیر شده بوده درست شد همه اینا رو بررسی میکنه یه روز برمیگرده میگه که به تمام گوشی دسترسی داره زبان گوشی رو میدونه تو باش مکالمه کردی منطقه زمانی تو روی گوشی هست همه چی زبان خود گوشی یهو می نگوشه تو باز میکنه حرف تعریف میگه می آقا راستی تو ماجرای فلان حق با علی بوده همه خانومارو نیدید تو اینترنت میاد مثلا میگه آقا دمد مسیحیت و اسلام داره سوال میپرسه منم خیلی پخش شده بودم من قزوتم میکنم در موردش فرض کن همین چه چی چیزی کوینز خب این از کجا آمد این صدا از کجا تولد شد از آسمون از آسمون اومده دیگه الزاما همین است خیر من نمیگم اینا اما آیا این این قرابت ذهنی رو بر شما وجود نیورد پس اون خطر رو ببین کنترل کُلنس میگه آقا دجال بر انسان ها رو کنترل بسم الله اون طرف این تو من. من تو میخوام چیکار کنیم اگر یه نفری مسلمان دوباره بگه من میخوام سازنده این باشم من میخوام بوع سازنده باشم امروز شما اصلا باید بیاره. مثلا این نرم رو بیاری بالا رایگان سرویس دهی کنی به مردم دنیا که از این استفاده کنن که استفاده اونا بشه دیتابیس تو مفت و سرویس دی بکنی که از گوشی تو استفاده کن مثلا فرض کنید یه نرم افزار رایگان درست بکنی تو دنیا که مثلا صوتو به متن تبدیل کنه که از این کلی برنامه‌ریزی مثلا زبان توسعه زبانی توسعه صداها چه چه چه چه لرن کنی لهجه های مختلف در برید بعدش چون تو رایگانی از تو استفاده بعد تو برداشت خود تو برداشت امنیتی داری بکن فرهنگی داری چی چی چی همین فردا بیا مثلا این نرم افزار ایرم مثلا آموزش زبان با همینه کدوم کلاس زبان چی بابا هستن همه اینا جمع میشه بابا وقت خودتون تلف نکنید بچه ها واقعا میگم یعنی مردم میشنن یوتیوب میشه یه خدمت شما مرس کنم یه دانشگاه به معنی واقعی یه کلمه سلام سلام چطوری خوبی؟ من خوبم میتونی بهم زبان ابری یاد بدی؟ بله میتونم به یادگیری زبان ابری کمکت کنم از کجا شروع کنیم؟ میخوام مکالمم خوب بشه خیلی خوب برای بهبود مکالمه در زبان عبری شروع می کنیم با چند عبارت رایج مثلا شلام یعنی سلام یا مشلمخه، مشلمخه برای مردان و مشلمخه، مشلمسه برای زنان که یعنی حال چطوره؟ توی مکالمات روزی یعنی معنیس و مزکر دارن در زبان عبری مثل عربی آره؟ بله دقیقاً در زبان ابری هم مثل عربی، اسمها و زمیرها به صورت مذکر و معنیست دسته بندی میشن. شلام، ما شلوم خواهد. خواهد. شلام، انی به صدر، ما شلوم خواهد. انی به صدر، من خوبم، تو چطوری؟ انی تو، تودا، سمیخ لیشمو اشعتم به صدر. کدوم کلاس زبان؟ نشستی تو خونه تو رختخواب داری زبان یاد میگیری تازه اگه اصلا لازم باشه زبان یاد بگیری <تصفيق> آقا باید وظیفه الان سال همیشه اصلا برای همین جلسات تشکیل وظیفه من دانشجو چیست امروز فلان وظیفه توی دانشونی که مطالبه کنی از این مسئولین خواب بشود چیکار میکنید امروز باید بخشی از بودجه کشور برای این قرار بگیره بینا عقب میفتیم هیچی حکمانی دست اوناصا اینترنت مالونه گوشی مالونه ارتباط مالونه تلویزیون شما خداوکیری مثلا فرض کن اینترنت دیویس مک سرعت داری خب تلویزیون دیگه نگاه میکنی نه برنامه تلویزیونی ها میره تو یوتیوب دانلود میکنی و میکنی همین الان وی های داخلی که دلایل این مردم دارن نگاه میکنن بالاشونه اونجا میتونی فول اینجا با کیفیت این 720 بیت میدن شبکه هم بعد تلویزیون ها ماشاءالله بزرگ کیفیت ها خوب پیکسل پیکسل میشه حالت به هم میخوره اصلا ارتباط حاکمیت با مردم قطع میشه تلویزیون ملی اصلا الان تو اروپا واقعا معنی نداره اینترنت پر سرعت مردم اصلا تلویزیون نگاه میکنن همه کانال ها یوتیوب دارن اخبار نشیدم ساعت 8 دو. میرم ساعت 9 بارگذاری کردم میرم گوشم بعد شما فکر करिए مثلا تو دنیا یه یه اجازه زنگ اعلان ماسک اینجوری بیاد بالا و مثلا همه چیو دست بگیره <تصفيق> ساده اید. بعد همه چی با هم یعنی هم داره روزه زیستی کار می‌کنه هم روزه هوش مصنوعی داره کار می‌کنه هم اینترنت رو داره فراهم می‌کنه تمام زیر ساخته دست یه نفر شما دیدید با توییتر با خرید توییتر ترامپ رئیس جمهور کرد دفع قبل توییتر دست جک بود بایدن رئیس جمهور شد یکی دلائل اصلیم بود برای چیمات خرید اثر گذاریم دیتا ما این صورت میگه ما تمام کنشگری های ما دو این گوشی داره ما حکوم یه پرونده داریم تو نس ای صدامونو میشناسه تصویرمون میشناسه اثر انگشتمونو داره قرنی چشم ما رو داره الگوی رفتن ببخشید رو سرچ های که میکنید چیتونی های که میکنید میدونه چی خوشتون میاد چی خوشتون نمیاد اون که زوم کردید و بیشتر زوم کردید و داره اون که سری بستید رو میدونه چی بدتون میاد کدوم پیچ و اوز وید کدوم پیچ و اوز میستید اون مخاطبتون که وقتی 20 نفر مثلا این بوکس پر اون اول باز میکنی میدونه مخاطب خاصه میدونه ایموجی هایی که میفرستی دلار واسه کی میفرستی اون لایک چاره براتون بدبخ میفرستی همه اینا رو داره شما جوری آنالیز منو شما داریم میشیم که ننه بابامون ما رو اینجوری نمیشنسه چرا؟ چون مر پدر و مادرمون اینجای فیلم بازی میکنیم اما برای این نه با این با خیال راحت داریم چون نیاز داشتن به دوربین این طرف چون نیاز داشتن به این طرف فرهنگی کردن سلفی گرفتن و بعد دوربین این برومد منگه دوربین سمت خودت باید باشه چون رسانش هم داره بعد اینجا شما حالا مثلاً، اون چی به برن عبالا راپل کنن مثلا آسمون مثلا اینقدر آقا اینقدر من ان روز همین منه طرف گذاشته زیر سانروف ماشینش تو مسیر داره میره وست شده داره از اینترنت استفاده میکنه اینترنت پر سرعت یه دونه میگیره بر 8 واحد بر 10 واحد همجیگه هنو آنتر مرکزی میذاره ما. محوره را که تونستی جمع کنیم جمع کنیم این خیلی سختره این انقدیه تو خونم بله میز پشت شیشه نمیدونم چی فالا چیکار باید بکنم آموزش دادی نه الان همه حرفا که ما اینجا زدیم چرا تلویزیون رو نبا زد بشه بچا چرا نباید بدونن الان ما همه شو خطر دیدیم نه گفتم آقا کور میشه شفا داد <تصفح> کور مادر بعد تازه چه دو دوربینی که برش میذاری خب دید در شوم بذار بقیه آدما نمیتونن ببینن می‌بینه عکسام بگیره بعد زوم هم بکنه پا اقاب درست کردی دیگه این بده؟ نه نه حالا یه روزی حرف فرموشیشون هم بگیم جمع کنم اگر کل اطلاعات مغزی نفر شد بکاب گرفت اینا این ها دارن حد حداقل دارن مدل سازی میکنن بگیم خیال پردازی دارن میکنن بگی بکاب بگیری یه سلولش هم داشته باشی بعدن این کردی اون در یک رحم اجاره ای قرار میدی این به دنیا میاد رشد میکنه این دیگه با سالا تو سوت پز نمیشه گذشت میگذرونه 20 سالش میشه 30 سالش میشه اینو دوباره برمیگردونی بهش این یه آدم کپی اونه اینجا اون بحثه اما صاحب همان روح نیست گفته همون بچه دو همسانه فوقش کل اطلاعات اون رو داره شبیه احتمال زیاد خیلی شبیه اون رفتار کنه احتمال زیاد خیلی شبمون رفت اما اون آدم نیست مسئله مرگ و زندگی اینم قران اگه دقت کنی جایی که میخادین رو به چالش بکشیش میفرماد یک مردیت آرزو مرگ کند اینا هر کدوم دوستان هزار سال عمر میفهمونه میفهمونن ما که اینا بقیه کارا رو چند تا بیماری پوستی بودم یه حضرت عیسی بیمار پوستی شفا میداد او موقع معجزه بوده الانم دکتر هستن مثلا میگویند اوی نماصام کره شفا بگیره خیلی هم خوشگل چیشی درست کنه. ای نه همین اصلا از از زیبایی هم شما نتونستن تشخیص بدی با کلی ویژگی های بیشتر رنگ و आवाज کنه تاریک کنه روشن کنه هر چی لنزشو ببنده باز کنه هر چی دیگه من چه میدونم کلی برای آدما بشه خواب ساخت بدون برای آدم تواهم بزنن یه نفر ببینن چی شده این دارن واجش میگیرن یه نفر اینجلا هم خطرناک هم جذاب باید دست خودمونش ببخشیدون روش یه سرات بفیس آقا ما تا ست چند بعد اینجا باشیم اینم بگی دوما هستیم آقا سوال مال دارید بپرسید آقا به نظرم هم نظرم آره اگر دوستان سوالی دارن تو بحث تراشه‌ها ما الان تقریبا کشورمون صفره از صفر که یه چیز پایین تریم اگر بخوایم الان پیشرفت بکنیم و الان به تراشه 2 نانومتری که شرکت TSMC تو تایوان تولید می‌کنه برسیم تقریبا یه 50 سال تو راهیم راه. خلا الان توی هوش مصنوعی تراشه خودش یکی از مؤلف‌های اصلی نیست یعنی الان بخوام تراشه رو از ما تحریم بکنن ما چیکاره یه چیزی دیگه هست انسان رو به تکامل داره پیش می‌بره دیگه اگه شما گفتید که با حوش ها دیگه از جامعه کنار گذاشته میشن باهوش مصنی تو با شغلای دیگه ساخت خاطرت اینجوری هم نیست خب با حوش ها یعنی هوش انسان رو در طول زمان کم نمیشه انسان رفت توتالیت‌تر از این حرفاست که اون اونچه ما رد میکنه اصلا تردید نکن خب با سرعت نورم رد الان بعضی از بازیا رو دادن هوش مصنی رد کرده مراحل بعضی گیمو رکوردایی زده خب که ما به بخ... مخیلمون هم نمی گنجه بتونیم مثلا الان یا شطرنج یک شطرنج بازی شطرنج اخیر شما رو الگوی بازی تو لرن میکنه من چون خودم با گوشی خیلی چیز میکنم شطرنج بازی میکنم خب مثلا یکی دو دسته اول یه حرکت میزنید دیگه تموم خب جوری اصلا حرکت انجام میده به شگفتی میاد شما با شطرنج بازی یعنی خود گوشی میذاریم برش دست میزنیم میگه بابا دمت چه اجا برکته ما رو که رد میکنیم بس با سرعت نور اصلا اینو بی خیال شیم که ما اون تاییدیه نهایی برای اینکه ما رو رد کنن اما همه الان کسایی می میگن ترس داره وحش ماسی برا میگن میگن اگر اینو ما خیلی منطقی به این ناچرا اصلا برای اینکه جلوگیری کنیم از جنگ صورت مساله رو پاک کنیم چه انسان‌ها نابود کن اینان میجنگن <تصفح> اون روز چیه الان حرفاشونه میگن نه ما اون تعهیدیه نهاییه بهش نمیدن دست خودمون نگه میداریمشونا تو مسئله دیگه راجع به اینا من بگم بعدش به نظرم مهمه چون بحث زیر ساختها ها مثلا تو تراشه‌ها اینا درست نه فقط اون الان رفتن سراغ برق هسته‌ای برق پاک به خاطر اون پروتکل که اروپایی‌ها گذاشتن رو انرژی پاک الان نیروگاهایی که اصلا تعطیل شده بودن به خاطر عدم بهره وری رفتن دوباره سرمایه سرمایه‌گذاری کردن سرمایه چند ده میلیارد دلاریو اینا رو برداشتن آوردن و میخوان برق جدا بگیرن یه وقت حکومت ها کاری نکنن دسترسی نداشته باشن دارن شرکت ها رو چند ملیتی میکنن که یه کشور خرابکاری کرد کل سیستمشون پایین نیاد دارن امنیت میارن الزامی نداره فعلا برای شما این نیستش مثلا تراش می رو می خرین همین وش ها کلی تراش ها داره. خب الان موشک فناوری بالا نمیخواد موشک هووش مصئوعی نمیخواد چجوری رفتار خودش رو تصیح چجوری جهت خودشو رو توثی اون شی... هم موشک های ماش مذیعت های فوقلادهش و نقطه زن بودن همینه یعنی اون لحظه آخر مانور موشک که توی نواتیم زدیم که باعث شگفتی همه دنیا شده میگفتن این حرکت آخر این موشک بود که چقدر خوب تو سرعت چار ماخ پنج ماخ هر یه ماخ سی متر بر ثانیه سا چهار ماخ پنج ماخ سرعت مثلا تغییر الگو داده پچهر الان داریم الان میشه اینا رو گیراورد شما تو این دنیا پول داشته باشه، پول بذار رو سنگ، آب میشه. اما باید زیر ساختش رو ساخت. الان 540 هزار تا 500 هزار تا اصالیت دست فلسطینیوس. از کجا آمده؟ خود اسرائیلیا خریده. خود از استرالیا خریده. پول. نه به خاطر ساینوسه، به خاطر به خاطر پول هر کاری خوست بدیم می‌خواستن بگم. به خاطر پول هر کاری بگی میکنم خب. آره نه باباشون هم می‌فوشن. خب؟ میخوام بگم پول پول آخرت که برای انا مهم نیست پول ما چقدر سرمایی گذاری کردیم نکردیم رقابت های اثران تو دنیا بین چین و امریکایی بیا تو این رقابت سمت این ور از مربر یه سوال تایوان بیخه گوش چین نیست؟ چین روی اون اثر نداره؟ ادعا نداره؟ نگفته میگیرمت فلان چرا امریکایی اجازه دادن اونجا این قدرت بگیره؟ مسئله سیاسی پشتشه. خب، یه ینی یکی دایی که چین الان رو نمیزنه همین ها نیازند به همین چیپ هست <تصفيق> شما میتونی به دست بیاری این نیست شدنیه ارزه میخواد سرمایه گذاری میخواد اراده میخواد همونطور میگم تو موشکی مثلا ما یه رادر داشتیم امنیتی شد مسئله برامون گفتیم باید به دست بیاری به دست جز بهترین های جز چندتای اول دنیا تو, تو یه سری از ها اول دنیا این تو مشک خ خب، همینه بقییا همقدر هم زحمت کشیدن بعضی دانش ها رو میشه مثل سعودی ها میرن میخرن قطری ها میرن میخرن کلش رو همدن یا جا میرن ما کم ببین این شما مثلا میتونید نفت تو بدی در مقابلش این دانش ها رو بخوای نفت تو بدی در مقابلش مثلا این هاستینگ رو بخوای این چیپست ها رو بخوای اونا میدن پول بعدش باید بری سراغ ساختش حتما باید همون جوری که رفتی سانتریفیج رو ساختی سانتریفیج تو یک سانیه هزار دور میچرخه این تکنولوژی چقدر بالاست تو ساختی تو داخل چجوری تحریم دور زدی اینجا میتونی بعدش بری روابطو با رو درست کنی الان همین الان ما دارن چوبه آمریکا رو میخوریم میگن ایران روسیه کره شمالی چین از اینا بهره نمیبریم به خاطر اونا دارن فوش میخوریم ما میگن ایران داره به چین و روسا کمک میکنه تو پهباد دادی به روسیه تو داری به چین نمیدونم کجا کمک می‌کنی خب با علاقه ببریم آخه الان بعد زیرساختی باشه دیگه چین چینو تحریم کرد آمریکا از بحث تراشه که تایوان تا دیگه بهش تراشه نده اون از... موقع چین سال پیش بود اگه تراشه 28 نانومتر خودش میتونست تولید کنه گفتن اصلا امکان نداره چین به زیر 10 نانومتر رسید 3 ماه پیش به 7 نانومتر رسید ما به 4 چار... به چار نانومتر رسید برو برو چین بگیر آخه نمیشه این مملکت هم به آمریکا فوش بدی هم یعنی مثلا با امریکا. هم مثلا هم این چی آخه اینجا نه شرق نه غربی تو تکنولوژی که نگفتن که <تصفيق> تو استقلال گفتن برو از اون بهره برد خود شما خود پاسو خود دادی که اگه اونم تحریم کنه چی؟ اون هنر برای... توه اون هنر توه که اگه الان همه دنیا تحریمم هم کردن نفتم نخیر نخریدن چی؟ این هم مثاله چرا نه فروختی روختی پس اونم شدنی اینجوری نیست روابط تو کشورها اینجوری نیست تو دنیا تو باید او رو زینف اش همین الان مثلا چین بدبخ میخواد هند رو رد کنه این هند یه پایگاهی داشته باشه اومده رو پاکستان سرمایه گذاری کرد که یه بندر بشه ما رفتیم با هندی ها همکاری کردیم چاوا‌ها رو دادیم که چینو بزنیم میگه مثلا فهمیدید روز اول که چاوا‌ها رو داشتید می‌دیدید چیکار داشت می‌کردید یعنی واقعا الان سیاست کشور که, که چینو بزنه برای چی بده هندی که می‌دونید که با استرایچ چه منافع مشترک کلان و فراوان داره شدنیه ببخشید مرحب مرحب. نه با شما هم استفاده با شما نای اسقری خوبی تو نگردت بله بله عالی از من سؤال داری از آی باش شما بکنم سر آیا یا بوده اصلا یک مثالی بردش بازن یون را درست اعتبادی آقا هایی بردار ندارم همین از گلیت به این قضیه و این از قدینام بوده یا مثلا نصف الان این جواب به تو این سوال بپرسم چون می‌خوام بدونم الان مثلا شما برپرکی رو بگید آدم که خو تو چون اکثرا مثلا این کار کرده حضرت ایساق و خداوند درست هر وقت تو چون آیه بودن خوای مثلا هدسته ایساق این کاری کرده مثل امیر شهید خازم آرشیویه اصلا دقت نکنیم که چه روانی رو داشته و این چه روانی داشت مثلا پدمن را خواسته به فهم می‌رس. چه می‌نی؟ به فهم. اول تعریف اجاز. الان یه نفر به پری کنه مثلا از تهران به روشن کرده. با هواپیما به بره مشهد نیست هر روز رو انجام میشه اگه 2000 سال پیش این کار کنه چی معجزه است آفرین اعجاز هیچ وقت محال عقلی نیست متوجه شدید معجزه بزای اینجوری به شما بگم معجزه بخشی از فیزیک است از نظر بنده متافیزیک بخش پنهان فیزیک است اون بخشی که نمیشناسیمش بهش میگیم متافیزیک مثلا ببینیم ما یه ماده تاریک داریم دیگه دارک matter در فیزیک چرا بهش میگیم دارک چون نمیشناسیمش مثل دارک انرژی ما چند درصد هستی رو میشناسیم فقط فقط 14 درصد 96 درصد هستی رو نمیدونیم چیه ما فهمیدیم با عقل با آزمایش با بررسی ها که یک ماده سیاهی در هستی وجود دارد چرا میگیم سیاه هیچ فیدبک ازش نگرفتیم. نه چیزی رو با استاپ داده نه نمی... اما میدونیم هست. میگیم دارکه نمیدونیم. خب اون الان فیزیک نیست. هست. تو اعجاز مسئله اینه که پریدن چی؟ اگه همین الام از مثلا من هم اینجا بپرم این الان اجازه. <تصفح> نه با هواپیما دیگه اجازه نیست. یه نفر همینا رو آب راه بره اجازه میگه بر چگالیه اینا آخه بابا علت کرده بر جاذبه رفتیم میگه اون زیرم هیچ چیزی نیست میز نه میزش شیشه ای مثلا این کارهایی که بعضی این شعبه‌ها بذا میکنن میگینه مسئله اینه از بعضی از این معجزات اختراعی بوده یعنی چی معجزه اختراعی یعنی که تو آفر میدی یه موقع مثلا پیغمبر میاد میگه من پیغمبر میگم کجا پیغمبر بیا داداش اثر میز میز میشه آقا مخلصیم جمعش کن ما الان ایمان میارم یه موقع است تو میگی نه این ترفند توه تو این کار خوب بلدی بعضی مثلا خوب بلدن مثلا پول قایم کنن بعضی خوب بلدن مثلا بعضی پوچ بازی میکنن نگاه میکنی اصلا شبه موجزه انجام میدن برات اما یه مهارته یه موقع است تو میگی میگه خب داداش همین رو از این کوه یه دونه شطور با بچه‌اش میگیش بیرو این میشه معجزه بعضی از اینها قابل مثلا در مورد امام زمان عج الله تعالی شریف همین مطلب قران مثلا میگه که سلیمان جا سلیمان جابجا کرد تخت خو نه خود سلیمان یکی از یاران سلیمان عاصف برخیا ترخ... تخت بلقیس رو از یمن آورد اورشلیم خیلی راهه چند صد کیلومتره این جنوب شبه جزیره اون بالا آوردش اورشلیم اون موقع قطعا چیه معجزه است جنی که اونجا بود قالفری تو قبلا تقوم مقامش گفت قبل اینکه این جلسه تموم بشه من میارمش یعنی چقدر؟ یه ساعت یه ساعت می جلسه طول میکشه. الان هم همینه یه تختتر سری بار بوززنین س اپیما کنید ببرید چی؟ بذارید جای اما باشه. ابن برخیا که علمی از کتاب داشت یه هش از هفت تا دو هفت به ترفول عینی آوردش چشم بر هم زدن او شده اجاز. میگه با جن جابجایی جایی ممکن است اما این اعجاز بود این عجز، اون قال افریت, افریت بود دادم عوضی بود جن عوضی بود. یعنی بود خب مجبور بود در اختیار از سلیمان بود او این کار کرد اما این نه این طرفت و لعینی این اون تفاوت هست یعنی بحث شما این دو تا نکته داره برای من اولا اینکه تو این دانشگاه ها بیشتر سوالات الان داریم بخش این طرف جالب برای من نشون میده که باید اونا کار باشه سوال شما یک مثالی از بحث ما بوده گفتی راستی از حضرت عیسی یه چیز دیگه برام سوال شد این مطلب اصلی که من میگیرم و همیشه سخنرانی بر همین منو من تنظیم میکنم به من میگن چطور کارهای مختلف دخالت میکنین می میتونم میتونید بد انجام بدید خب شما دارید میپرسید میتونه قانع نشی فیلم دارن میگیرن میتونن قضاوت کنن استاد عزیز دیگه اینجا نشستن میتونن پاسخ مرام بدن اینا. آقا بازار آزاد گفتگوس آدم‌ها قضاوت میشن ولی کار نمی‌تونید چه جور چیزی رو بگید خب اما تهش می‌گیم با شما خالده نمی‌کنم تشریف بیارید جواب دانششور بدید تشریف بیارید جواب جوونه مردم رو بدید چند بار دیگه رهبر کشور راجع به هوش مصنوعی یاد بگه حالا بیا راویبور اومد آمد هوش مصنوعی زد خب همه حرفا که من اینجا زدم بیکاری باشین اینجا بشینید کلاس هزار زندگیتون بزنید یا برادر عزیز من فرمودن اگه تلویزیو میگو بیگو بچه ها فردا میخوان مثلا بریم جدول زرب و یادمون بدن بریم بشیریم سالان کشی میگن اینجا ما خودم باید بشیم هم گرنگ بکنیم مسئله چیز دیگه است کل این بحث ها بحث های به اصلا فهم موجود من صحبت سخنششم با امان دای باها ها یک جایی جلسش کامل تفاوت شعبده و اعجاز و موجزه و جادو و همینا رو گفتم ا گوگل کنیم چه بدو کنیم استفاده کنیم پس هر جا هر نوع مسئله ای که تونست عجزه به وجود بیاورد معجزه است عجزه خیلی از این کارا ببخشید خیلی از این کارایی که مثلا شما میگی عجب کارو فلانه خیلی از اینا با جن ممکنه خیلی از اینا با جن ممکنه فکر شما رو میخونه میره به اون یکی میگه ها معجزه است نه یه سوال دیگه مگه مگه اون دار دسته فرعون چوب نمی‌دونن چیزا اینا رو شبيه مار نكنه یعنی مردم مار ندیدن مگه مردم کجا بود بفهمان من مار دیدم یا واقعا مار شده خب پاستیل با سهرم شبیه این ممکنه کاری که حضرت موسی اینه به محض اینکه اساسش افتاد اجدا شد اونا دوباره چوب شد دقت کنید یعنی عصای حضرت موسی اجزاء حضرت موسی مار نخورده چی خورده چوب خورده مردم دیدن داره چوب میخوره دو اون واقعا مار شد می بلعید فلان باز هم میتونه همین الان شما یه انقولت ببری بگی شاید اینجوری دیدن درسته انقولت شما وارده میدونش مثل مثلا شاید این قصه است مثلا آرشی مثلا و فلان برای همین ما در اسلام به اینجور چیزا استناد نمی کنیم پیغمبرمون شق القمر هم داره اما ما خیلی محل توجهمون نیست میگیم همین قرآنش منطقش اینی که امروز از غزه‌ای من دارن دفاع می‌کنن تو مسلمون این ورژنش داره دفع میکنه این خود اسلامه محکمات و مسلمات دین به درد میخونه ببخشید خسته نباشی سلام, سلام مجدد در زدب و احترام یه نکته در مورد این که فرمودین بات ها یه جورایی با خیلی فرشتن مجبوره به این که خوب باشن فرشتن. نه. آیا این چیز بدیه یا نه. چیز خوبیه؟ این یه موجودو تو سری خوره که ما هر چی میگیم ا فلان می تو سر میخوره خب با بغض نداره. فوش شما روش اثر. خب این که چیز خوبی نیست. اصلاش اثر نداره فوش شما. فوش شما. اون درک از این فوشا میگین چی میگه؟ خب پس ساخت ربات رو متوقف کنیم چون اینا واشرب نشین الا میگه. خب باشه. آره من نگرفتم شاید مطلبتون رو خوب متوجه نشدم. نه می خوام ببینم که این خوب بودن مطلقه به جای خوبی میره یا جا به جای بدی میره. من من طرفدار سد اینما <تصفيق> نظرم خب، بهتون بگم سوال دوم ازش باید بهره ببریم حتما ماده سوابق کنیم منم میگم ملاحظات داشته باشیم زیر ساخت دست خودمون باشه دشمن نرسون اصلا همین ملاحظات و زیر ساخت الان یه جای ویدیا ب... جا رسیدیم که آقا تلفنی که دسته ممکنه خطرناک باشه اصلا یعنی اولا چیپ داره اطلاعاتتو میگیره اگه خیلی خطرناک حتما داشته باشه و مثلا حتما بدونید من جلساتی دارم که چوش گوشی رو میذارم بیرون <تبیر> خب الان مسئله اینجا است که آیا ما کلا دیگه این تکنولوژی رو باید بذاریم کنار نه. و باید بریم سراغش و آیا ما میتونیم اصلا این رو بومیسازی بکنیم با توجه به این که دیتاسه خیلی چیزا هستن دست ما نیست ببینید اصلا یه بحث انقدر چند شخص من اون کجا شروع کنم ببینید نگاه کنید الان کی گفته شما باید همه چیز رو تولید بکنید هیچ کس همچین داین نداره. اصلا تو دنیا نمیشه قطعا نمیشه کس میخوری. میگه آن چیزی که مهمه میدونی دشمن روش دست میذاره بابا تو درمیاره، اونو خود که این منطقه، هزینه فایده کن رو این خود که اگر واقعا به نتیجه برسیم، نگاه کن، بشر شش سال پیش، الان ما پیش رفته تر هم ایران خودمون. بش... الان یا شش سال پیش مثلا، میگه الان ما تو خیلی تکنولوژی از اون بشر شصت سال پیش جلوتره. بعضیش ممکن هنوز نرسیده میشه. خب. می چجوری اون شروع کردن توسعه دادن از همین کانی ها از همین مواد معدنی توی زمین شروع کردن فلز و فلز و خواستر کردن آلی‌ها و چه و چه رسیدن پس من میتونم برسم الزامی داره چرخ رو اختراک کنم از اول میگم نه خیلی از اینا میتونی بری بخری دانشش میتونی بری بخری شوروی که فروپاشید همین اسرائیل ها کلی از دشمندهای اتمی شوروی رو بردن اسرائیل فرصت و استفاده کردن یک اتفاقی افتاد یه د... اسرائیل پنجره‌ای باز شد این فرصت پنجره جنگ اوکراین و روسیه باز شد. رفتی استفاده کنی. روس سری اماراتی قاپیدنش. ببین چیکار کردن؟ گفتن عرض تو بیا از اینجا ببر. الان روسیه هم مخالفین است. ما چاپ به امارات نگونا کنیم. <تصفح> چون ارزان اینو تو فرصته. من میگم ما خیلی فرصت ایم لزومی نداره حتما من الان گوشی رو بسازم. نه. به این دانش برسم که بتونم این ازش بهترین از استفاده رو بکنم. بکنم یه نرم افزاری هست من نتونن جاسوسی کنن میشه چون نمیشه نه همش شدنی اصلا پیچیده نیستش بفهمم خیلی هاشم کنار چه تحلیلی مثلا میخواد بگم این تفاوت و اینه سوالشون اینه که خب همون ها رو بیارن روی انسان ها این یه پدیده همین الان آقای ایلان ماسک روش کار میکنه انسان ربات انسان آره انسان, آره انسان هایی که در واقع انگار که ما من گفتم عضو اکسترنالی داریم یه حافظه بکاپ یه مغز بکاپ یه ها. از اون بتونیم بهره ببریم یعنی انسان هم دیگه چی یادش نمیره میره ببین انسان توتالیت انسان اجازه نخواهد داد کسی جاشو بگیره نکن <تصفيق> خب این خودخواهی که انسان داره عجیبه این حس بقایی که داره اجه نخواد برای همین اینا رو محدود خواهد کرد این حرفهای هم که دارم میزنن یا فیلم هاش می انگار یه حالت خاص پیش اوومدده این تونستسته مثلا در بره. دی یه فیلم درست میکنن هو مصوعی چرا او قرمز میکنه یا رو بکشه نمیدونم با صدای این به اون یکی زنگ میزنه این کارا کار ندارم خب بله میتونیم ببین ابزارهای انسان بهتر. چرا حالا حتما فکر می الان مثلا این باید به مغز من چسبیده بشینم بغلم باشه تو کامپیوترم باشه بازم کمکم داره میکنه دیگه دستیاران خیلی خوبی هستن بهترین عبارت همین یه جایی در چیزی بگم یکی میشم با هم دیگه اه. انسان و ربات وقتی در همون لحظه تو هر چیزی که میخوای انگار تو ذهنت میفهمی نیاز نیست دوباره ازش بکرسی و زمان تلف بشه آره دیگه خب این یه زمان شما میگه دو ثانیه افتادم جلو 10 ثانیه اگه گیر ده ثانیه است ما مشکل ندارم اینم یا ابزاره بازم شد ابزار دس پس دستیاری دارم که لازم نیست بهش بگم فکر کنم میفهمه مثلا ها نه انگار مثلا علم 100 سال تو تو ذهنت داری و میتونی طبق اون علم تصمیم بگیری که مثلا خب بس من ببرم چیکار کنم اوکی مشکل از نظر همین از نظر شدن بله اگه الان هست نه الانش نیست اما در آینده خواهد شد بله آیا ایده رو نگران کرده بله همینا نگران کرده ایده رو خوشحال کرده بله اما آنچه که به معنی واقعی کلمه میگه آقا استاد دانشگاه بود برای چی خیلی خوب ریاضی درس میده تمام <تصفح> تمام آقا اصلا اینجا قیافه یارو رو عوض می‌کنی با سیبیل نید به درس بده دیگه توضیح بیشتر ندام خوبه <تصفح> که قشنگ ریاضی شیرفه بشه قشنگ آخرین سؤال هم فپا اگر <تصفح> با صدای دوست داشتنی و کی چیه کی؟ اون بالا بالمال های شما چند و سرمایه‌گذاری این داری میگی؟ به کشور رو داری میگی؟ شما تریدره آره؟ ترید میکنی ها؟ فارکس کار میکنه این حالا بیرون وایس اگه شخصی ما شخصی بهت میگم بنظرم چیکار کن. اما الان کشورهایو باید روی ببینید یه چیزی تو میام کاری دانشگاهایی که صهیونیستاست دست میذارن بدون حساب ببین الان مثلا چند ساله اینا دارن راجع به این چیزا حرف میزنن نوح یوال حروری چند ساله دارن حرف رو میزنن خب یه صهیونیست اسرائیلیه بعد سالهاسن کتاب دارن مینویسن تولید محتوا کردن راجع به حرف زدن ما نباید اینا نشخار کنیم من ندیدم جز تشیع کسی بیاره به خدا مشتری هم که آقا روایت داشته باشی که آقا تو آخر زمان مردم دنیا میشینن دنیا میشه یه خونه ای از گنج کنج دنیا صدای همدیگر میشنون همدیگر رو میبینن همه چی رو با هم به اشتراک میگذارن اینا تو روایت روایت ما ماست من بعد انگیزه بیشتری میداشتم برای رفتن من باید برای ساختن اون ظهور و اون دنیای زیبای بعد وعده شده اقدام کردم افضل اعمال انتظار بر از افضل عملها باد کار میکردم نه که مثل برای یابشینم لام بدم بغل چیزی کار بکنه خب این هست اون دانش ها چیه؟ همینه علوم شناختیه که همین دارید ما جدا هم رو به رو در ساله میخوااستم بیایم تو دیدم اون طرف است و اگر از بچه خود هوش مصنوعی ما دانشگاه شما خیلی رفت آم داره خدمت شما عرض بکنم که علوم شناختیه همین دانشه. خدمت شما عرض بکنم تکنولوری آیتی رو نمیدونم چههران چ چه که مربوط به این سمت و سوی دانش ژنتتی بسیار مهمه بسیار بسیار موس او زیستی بسیار بسیار چون دیگه ترکیب شده است ببینید من نمیخوام وارد بحث های ژنتتی چون ربطی به برنامه و بحثمان ما ژنتیک رو گفتیم بعد چیپ ستار رو گفتیم که بگیم حالا هوشمسئول مصنوعی این سو میشه میتونه مردم یه شهر رو بندازه به جون یه نفر دیگه یه مثال برای شما بزنم یه مرغ حیون دیگه یه مغزی داره تحلیل میکنه دیگه. حالا انقدر فشم میدمیم مغز مغززنز مرغه به نفر یه مغزی داره. این یه تغییراتی درش به وجود میاد همین مرغه وقتی جوجه داره به سگ حمله میکنه وقتی جوجه داره و الا مرغ نماد ترس تو فرهنگین لیسی ما مثلا میگیم مثلا بوز میترسه خارججا میگه مثلا مرغ میترسه چه اتفاقی درش افتاده یه فرمانی گرفته شما مثلا چه میدونم یه گربه موش ببینه چیکار میکنه چیج حمله میکنه بهش درست شد نمیشه برای این گربه های چیزی ساخت اینا ببینن حمله کنن نمیشه یه شیر مثلا شما رو غذای خودش ببینه نمیشه یه آدم کسی که باش پدر کشتگی داره اونو ببینه حمله کنه بهش صداها چیزی ممکن وقتی شما کنترل برای همین همون اول خواهر چیزی فرمود گفتم اول بعد مغزو میگفتید اول هوش مغز اصلا مغزی که توش هوش داره کار میکنه که وقتی این مغز رو به کنترل گرفتی کلین این انسان رو به کنترل گرفتی آقا این چیزی که دوره باید میگن قلبه تو روایت میگن قلب تو میگن مثلا قلبش فؤادشه یعنی اینا مغز یعنی ادراک کلی این آدم روح ما به چیزی توجه میکنه که مغز ما تمرکز کرده همین ها میدونن ما رفت بودیم آقا ش عبدالظیم یه نابینایی دیدیم چی ازش پرسیدم نشوندمش سری من ببینم اصلا رحم نمیکنم میگم یه سوال دارم از کور مادرزاد بپرسید بگو تو چی خواب میبینی صدامیشد اصلا اون نمیدونه دیدن یعنی چی که توش میگه دیدم میگه من نمیدونم چی چی میگین اون نمیدونه قرمز یعنی چی اون نمیدونه آبی یعنی چی او تو خواب میبینه که باد میخوره به صورتش یه صداهایی داره میاد ها یه حس کمتر داره حرف من اینه آیا یه نفر که کور مادر زاده مگه تو همین تجربه نزدیک به مرگ این زندگی پس از زندگی این میگه من میگه من جسمم جدا شد هم جساب شده هم اونو می دیدم هم بقیه چیزها رو مگه نمیگن یه دونه نابینای مادرزاد برای من بیا این رو ب که بستر فهمه یه نابینای مادرزاد برای من بیاد تو خواب میگن ببین میگن روح با این می بینن این ابزارست این هم نباد هم بگید میگن می بیند میگم یه دونه کور مادرزاد برای من بیارید که خواب دیده باشه خوشو دیده باشه ها پوهر دیده باشه در دیده باشه دیوهر دید بیارید برام من دو سال نورولوژی خوندم نورساینس خوندم بعدش رفتم روانشناسی خوندم که حرف مف نزده باشم مغز اول بشناسم کار کردم مغزو بشناسم ایمانم به اسلام و ده برابر شد خدا شاهده چیزایی میرسید میدیم آن رواهتش داریم من تعجب میکردم اصلا به شگفتی میمادم خب این ایمان من نوعی رو تقویت کرده بریم استفاده کنیم از این دانش ما با پیشگام باشیم توی اینا نه متاسفانه امروز وقتی دقدقه دشمن چیکار کاره دشمن سطح دقدقه یه کشور که آقا برق میره یا نه یه مثال برات بزنم تمدن ها کجا گرفتن جایی که اول مسئله قضا حل شد چرا اسکیما تمدن ندارم چه تمدن کل هنرش همینه که مثلا خرصو و شنا شکار کنه و تا چادر بسازه دیدی اینا اسمش حضارت تمدن خدا وکیلی. مدل های شکار فوک مثلا این هم مثلا تمدن نیستش تو بین نهرن نهرش در ایران گرفت جایی که مسئله غذا حل شد جایی که پروتئین حل شد جایی که گندم بود هر جا غذا نبوده تمدن ها ضعیفن مثلا من آه بومیان ابومیان هم چی چی مادرشون تمدن دیدیم اصلا این خودیش موزله ها این آدمایی که خیلی فاز انسان دوستی دارن یه چیزی دارن واقعا خراب میکنن بعد ببینیم مثلا اوج تمدنشون چی بوده می چیدن. می سنگار رو اینجوری میچیدن ماهی ها میومدن پشت سنگا گیر میافتادن تمدن یه روش شکاره توهین دار میکنیم انسان قضا رو حل کردن دشمن امروز ما رو درگیر نگاه میداره که تو فکر شکمت باشی به اون بالا چش میو آب. بریم مردم, مردم ما داریم توش مصنوعی عقب میفته مثلا رو برقش رفته تو آسانسور گیر کرده. آقا اونوری آره تو آسانسوری آره ببین میدونی هوش مصنوعی عقب افتادیم ببین چیا حوالت کنن. <تصفح> چه فوشا بهت بد بده. <تصفح> اینو حل کنیم. رو بعد برای چی من نه توی مساف اومدم کارگرو درست کردم اولش من همیش سوالات شما رو میادم دانشگاه جواب میدادم. بعد چی شد گفتم این کشور رو بعد کنم. اینجا دعوا با این سیاسیا شروع شد. گفتن نه نه تو فقط برو شفه جواب بده تو کار نداشته باش کی رئیس مجلسه کی رئیس جمهوره یه کلی پرونده قضایی برام درست شد 20 سال سخنرانی هیچ هیچ یه هایی تو 6 ماه اینه بعد من میگم ببین من دانه ای رو برداشت میکنم که شما با عمل کرده خیصدتون کاشتید تو نمیتونی که با عمل کردن مردم رو نابود بکنید من بیشت به شفه جواب بدم مردم ایمان داشته باشید فقرم خوب است الفقر و فخری روایت هم داری مثلا شروع کنم بگردم از وقت تو آیه آیه پیدا کنید یه قورایی رو باید پیدا کنید ما الان بگم اینا یه خورده اون خدا بیاد بگه با لونگ هم ببنده مثلا یمری به لونگی ببندید بیاید مبارزه کنید با یه لونگ چرا شما اینجوری نمیرید من اینجوری نیستم از با عزیز ساختارو ساخت پیگیری هم می‌کنم مطالبه می‌کنم شما بودید بودید نبودید تنها این کار انجام میدم از خودم میدونم خیلی ممنونم از... از ساتر محترم سوات پایانی اگر دارین به که نه نه خیلی نیست فقط اون دوستانی که احیانا دوست داشتن مثلا توی نشستای این مدلی شرکت بکنن خب ما یک سال تقریبا برگزار کردیم این نشستا رو و این نشست پنجمشه هر سه ماهی اکی بار برگزار میشه موضوعاتش هم مختلفه حالا مثلا این راجع به گوشه بودی که دیگه راجع به غزه بودی که دیگه راجع مثلا کادر سازی تو بستر مثلا ظهور امام زمان بود موضوعات مختلف داره ما حتما یه نشست در رابطه با یهود خواهیم گذاشت حتما یه نشست در رابطه با بیوتکنولوژی و بحث ژنتیک خواهیم گذاشت این مسئله یکی یکی ان تو بستر آخر زمان و دوران عصر غیبت امام زمان ان بررسی خواهیم کرد اگر کسی اھیانا دوستاش حالا شرکت بکنه یا همکاری بکنه توی اینا میتونه با دوستانی که حالا هستن توی مجموعه های و کار توینا شونه؟ ارتباط بگیر. از شما نهر نکنیدیت را فیف و نکته پایانی نه من خوشحال شدم خدمتون بودم چرا اینجا آمده من جا همون بودم هستید یا شما ایدم؟ هم پشت شدین رفتش ها رفتش های آره بعد طالبش بگید حاضران به غایبان برساند چرا گفتن این دانش شده در برگذارش من خیلی برای معلم ها عرضش نه ادا الان چون این نشستم. هستم من آخرین سخنرانی قبلی من با دانشگاه فرهنگیان بوده قبلی همین مینیم. قبل از این آره دیگه فرهنگیان بود خب برای چی به خاطر اینکه که شما هر کدومتون یه پیغمبرید انسان ها رو میتونید نجات برید تک تک این آدما هر کدوم فردا رئیس جمهوری مملکت باشه من اگه پیزشگیم بابر کنیم شده یه روز باشه هر هر جدی میگم هر کشور یا کشوری و جا جابجا اینجوری ببین قرآن میفهمه که یه نفر رو نجات دادید کل انسان ها رو نجات دادید با انرژی با وضو برید سر کلاستون بچه های مردم دست شما اسباب بازی نیستن آره دنیای پیچیده ای در پیشه باید آدمای یک ایرانی مسلمان به معنی واقعی کلمه پرورش بدید که عقل اخلاقی قابل اتکا باش که بشریت شریت آقا اقا افتخار میکنه این نگاهکنین از ما زده بیرون این وظیفه من و شماست. منم یه جور معلمم شما یه جور معلم میخوام بگم دلیلش این که راژ چیزا حرف زدیم به خاطر اینکه شما امروز همه اینها رو انتقال خواهید داد امروززی اثری گرفتید گوشه ذهنتون نشسته از همین ابزار استفاده بهتر خواهید کرد برای آموزش بچه ها این نه ترس داره نه چیزی من که واقعا دارم کیف می کنم فقط دوستان یرژیننا جدیدترش بیاد خیلی مبتکرانه ازش بعض موقع با دوستان مثلا همچین مثلا بعض میقا جواب نمیتونن ازشون بگیرن میدن من جواب میگیرم گیرم هم امچن... انقدر خو... کیف میدین ها دور میزنی <تصح> خب یعنی بالاخره اون روز یه کتابی میخواستم ترجمه کنم به آرامی و اورشلیمی بود به زبان آرامی نوشته شده بود بهش گفتم گفت من کتاب ترجمه نمی کنم این غیراخلاقی حالا آره نسخه سنگی آه. تو اینترنت گفتم بابا این تو اینترنت از این لینکیه قابل دانلده مثل میفت نمیکنم منم ورداشتم سکی نیشات گرفتم صفحه صفحه از ترجمه کنمش کار نداریم با رو انجام داد برای من بعد کار انجام داد به خودم این کتاب رو ده سال بوده میخواستم ترجمه کنم نمیتونستم نمیتونستم کسی نبود بلد باشه بعد راحتی با این انجام دادم الانم به دوستان گفتم سریع یه فرصتی فرام کنیم ما دیکشنری آرامی به ابری ابری به آرامی و برکس به هم گرفتیم تایید کردم گفتم بدیم به اینا ما از اول بخوام متن بشه میدم تونتر ما ترجمه کنه جمله با سر تحت داشته بشه خودت هم میفهمی و تشخیص بدی مثلا خاصیت اومدن پایین بتونه نشون میدم خب بهش گفتم جمله رو مینیوسی فزوی این دستیا رو خوبیه ببینید به دوران فزولی نمیکنی تو معنی تو این کلمه رو اول میخونی زیر کلمه زیر کلمه معانی مختلفش رو مینیوسی تو میینی مثلا میگه این ده. شیر میگه آقا شیر یک حیوان در جنگل یک مثلا برای بازو بست کردن آب مثلا یه میلک مثلا خب اینا رو می نویسی یه ترجمه پیشنادی هم بده خودت اشکالی نداره من کور که نیستم خودم این کلمات رو می خونم مثلا تحلیل می کنم دستیار خیلی خوبیه خیلی خوبیه مثلاً اصلا مثلا راجب دستیارش حرف نزدیم نخواستم مثلا تبلیغ کنم فرد شما برید نه من راجب آینده شور اینکه اینا فرصت ببینید مطالبه کنید مطالبه, مطالبه سر غذا چی دادن قضا ندادن فلان وزیر اینجوری که اصلا اینا پاییناست اصل داره بید. دو سال سه سال پنج سال ده سال وقت میش شما ازا کشور رو جمع کنید هر روز باید نامه نوشته بشه آیا آقای وزیر داری؟ چی کام بر بر چی آقا وزیر وزیرداریره چیکار می کنید زار مترم ازذاش بربرش. برای ما چیکار کرد عضهشم تو اقا هر اداره به خوددا سهمششهخص بشه یه پولی بذارن کنار کم پول نیست شدنی. ساختم فراه میشه دانشیم که ایرانیا داره میشونفهمدن هوش ایرانیا اینکه توضه نرم افزار ایرانیا قویان اینا خیلی کمک خواهد کرد بعد یه فرصتتییه مادر اون دشمن نفهمیده خیلی به قول ماخینه و خیلی خره <تصفح> خیلی خرم میدون چرا؟ این چند ده هزار متخصصی که از ایران رفتن بیرون اینا ارتباطشون با ایران قطع نشده. شما خدا رو چی دیدی؟ یه دیدی یه خریمه سترام دوباره رای شروع که اون طرف اینا را اخراج اگر تو برنامه ریزی میکردی آدم بفرستی در پوشش یه ضد انقلاب که جمع بشه برون اون طرف خوب دانش رو یاد بگیره ارتباطات بگیره بخواد برگرده به این قشنگی نمیتونست این کار کنی. تو بندگی تو بکن منطقه درست منطقی با نظم با پشت کار خدا خدایش شما برد یه